حال خالص سوره مبارکه شورا را در سوره مبارکه شورا اشکال دیگر درباره همین موضوع توحید فی الدعاء حل میشه او اینه که در سوره همیم سجده خانیم کسانی که در خواب یا بیداری میبینند چیزهایی را و افرادی را که افراد میگویند در حاجات غایبانه خیر خدا را فریاد بزنید این شرارت شیاطین هست حال اشکال اینه که در بعضی از کتابهای سابقه مثلا در تورات، در انجیل، در کتابهای گذشته بنی اسرائیل عباراتی وجود دارد که از خواندن اون عبارت معلوم میشه که ما میتونیم غیر خدا را هم صدا بزنیم مثلا در کتاب مسیحیان اشاره شده به اینکه از عیسی کمک بخواهیم از روح القدس کمک بخواهید از مریم مقدس کمک بخواهید در کتاب های یهود هم چنین خب پس تو این کتاب هایی که این کتاب ها کتاب های آسمانی هستند در این کتاب ها عبارت های هست که اجازه ندا و فریاد از غیر خدا داریم چطور شما میگید که چینین چیزی وجود نداره خداوند عزواجل در این سوره جواب دادن پاسخ دادن چند جا به این جواب اشاره شده که اون چیزی که به سوی انبیاء وحی شده وحی همه انبیا یک چیز اون اینه که همه حاجات را خدا براورده میکنه فریاد فقط برای خدا باشد در حاجات فقط خدا را صدا بزنید هم برای شما ای رسول الله و هم برای انبیا همین مضمون نازل شد اما اگر در کتابها خلاف این وجود دارد در کتابها والا اینکه کتاب های ها ها آسمانی شما می بینید تایید شرکست ترغیب به سوی فریاد زدن از غیرالله است این در واقع تحریف ملاها و پیشوایان دینی هست که اونها دستکاری کردند و کتاب های را تغییر دادند و الله، در شرعی که خدا فرستاده برای هم همه انبیا و برای شما و در کتاب ها و وحیه که خدا برای همه انبیا و شما فرستاده همه مشترک هستند همه همه یک مطلب را بیان کردن که فقط و فقط خدا در حاجات خواسته بشه از غیر خدا خواسته نشه خب پس خلاصه این سوره این هست که تمام انبیا تعلیماتشون مشترک هست در اصول با هم دیگه تفاوتی ندارن که عالم الغیب و کارساز و مشکل کشا فقط الله هست فقط الله رب بخوانید این تعلیم متفقه تمام انبیاس و آنچه که غیر از این هست اون عمل کرده علماء باغی و گمراه هست پس این تحریفات برای هیچ کسی نباید قابل عمل باشه این عذری نیست حامی معین سین قاف این از متشابهات است الله اعلم و بمراده بعضی اسم اسمین سوره سوره حامی معین سین قاف است کذالک یوحی اليك اینجا زیرش بینیست بیان وحدت كتب سماويه یعنی کتاب آسمانی همه مثل همستند ان کاف تشبیح هست تشبیح در چی است؟ یعنی مثل ذالک الوحی تفسیر مدارک نوشده مثل همین وحیی که بر شما ای پیامبر ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرستاد شده مثل همین وحیی بر انبیاء گزشده هم وحی شده کذالک یوحی الیکا این گونه وحی می شود یعنی این ماضی استمراری این استمرار هست از گذشته وحی می شده الیک بسوی شما و الالذین و بسوی کسانی که قبل از شما بودند وحی می کرده کی وحی می کرده؟ یوحی فیل است الله اللہ العزیز الحکیم است الله اللهی که غالب و با حکمت است او بر همه شما پیامبرانش همین وحی را می وحی غیر از این وحی بر انبیاء گزشته نبوده له ما فی السماوات و ما فی الارض این خلاصه وحی است له لا لغیرهی حسر است فقط و فقط برای الله است ما تمام تصرفاتی که در آسمان ها و در زمین هست همي تصرفات چه در زمين چه در آسمان اختیارات قدرت ما لئو هست وهو العلي العظيم وبر ترس بر همي العظيم بسيار بزرگ هست نفي شفاعت قهري هست تقاد السماوات يتفطرن من فوقهن انجا خاندیم وهو العلي العظيم خداوند هم بر همه برتر است و هم عظیمتر است عضمت دارد این تکاد و سمااد اون عظمت است. عظمتش به قدری هست که نزدیک از آسمان ها یا تفتر نه شکافتشد پاره پاره اود من فوق نه از بالا. یعنی آسمان نزدیک هست که ببین آسمان یکی نیست. هفت آسمان هستند از بالا چی را فرمود من فوقهن را فرمود مفسرین نوشتن من فوقهن به این خاطر که معظم نشانات جلال و عظمت پروردگر بالا هستند زمین هم از نشانات قدرت است کوها هم هستند دریاها هم هستند اما بالاها نشانات خیلی بیشتر هستند اونجا از کنم که عرش هست کرسی هست لوح محفوظ هست اونجا آثار قدرت به اندازه هستند که در زمین نیست پس وقتی که این آسمان ها اون عظمت را میبینند اون عظمت را مشاهده میکنند خدا اینها را نگاه داشته و الا نزدیک است که آسمان این کنایه اصیه از, از عظمت زیاد نزدیک است که آسمان پار پوره بشه یَتَفَتَّرْنَا مِنْ فَوْقِهِنَّا یَتَفَتَّرْنَا یعنی یَتَشَقَّقْنَا مِنْ عَظْمَةِ اللَّهِ وَجَلَالِهِ تفسیر قرطبی گفته نزدیک است که اینها شکافت بیشه پاره پاره بیشه منفجر بیشه از بالا وَالْمَلَائِكَةُ بحمد بِحَمْدِ رَبِّ وَالْمَلَائِكَةُ انجا چنان عظمتی هاست جنان جلال و جبروتی هست که ملائکه مشغول تسبیح هم با و حمد ربشان هستند آنها سبحان الله و بحمدهی میگویند وقتی که اونها عظمت را مشاهده میکنند و یستغفرون لمن فی الارض و ملائکه مغفرت میطلبند برای اهل زمین آیا آه برای همه اهل زمین؟ نه مراد از من فی الارض مؤمنین هستند چونکه وارث اصلی زمین اهل ایمان هستند اهل ایمان شایستگی این را دارند که در زمین بمانند بقیه اهل کفر و اهل شرک نه خب چرا این را ما تفسیر کردیم فی في به بالمؤمنین اهل ایمان چون شما قبلا خواندید که فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلک در سوره مؤمن خاندید ملائکه این دو را میکنم بر الها ببخش ثاني لك توبكر دند الشرك واتبعوا سبيلك بيرو في الراهة شو دند فس ملائكة مطلق براي أهل زمين دعانا مي كونند القرآن يفسر بعضه بعضا بلك براي مؤمنين روية زمين دعان مي كونند ويستغفرون لمن في الأرض مغفرت در هستند وموحدند. خب والای که دعا میکنی خداوند هم حتما قبول میکنه چرا الا ان الله هو الغفور الرحیم خبردار آگاه باش همانا الله بخشاینده و مهربان هست میبخشد نه تنها میبخشد گناهانت را پاک میکند بلکه بر تو لطف و مهربانی هم میکند به اینکه تو بر ایمان و بر توحید استوار باشی استقامت داشته باشی والذين اتخذوا من دونه اولياء اما انجازاجر است این سرزنش است زجر همراه با تخویف اما اونهایی که غیر از خدا دیگران را کارساز خود گرفتند این را تاکید میکنم قبلا هم عرض کردم که اولیاء و ولی به معنای دوست نیست غیر خدا را انسان میتونه دوست خدا باشد ولی با, با هم دیگه هم ما میتونیم دوست باشیم با هم دیگه هم دوستی داشته باشیم فقط خداوند میفرماید که کفار را دوست خودتون قرار ندهید ولی با هم دیگه دوست میتونیم باشیم اشده و علالکفار روحما و بینهم با کفار سخت باشیم با هم دیگه مهربان و محبت داشته باشیم اینجا یا در اکثر آیات قرآن مجید دوستی با خدا یعنی خدا را حامی خود قرار دادن خدا را ناصر خود قرار دادن غیر خدا را قرار ندهیم این از مثل اون آیه هست که ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر غیر از خدا برای شما هیچ حامی نیست کسی که برای شما ولایت داشته باشد صاحب اختیار شما باشد بس اولیاء به معنای صاحب اختیار هست به معنای ولایت هست به غیر از خدا کسی بر ما ولایتی ندارد لذا الله می فرماید والذین اتخذوا من دونه اولیاء آنها که بغیر از الله دیگران را حامی خود گرفتند صاحب اختیار خود گرفتند الله حفیظ عليهم خداوند بر اعمال اونها محافظ است. یعنی چه؟ الله ماشرفاتی تانویی نوشته. یعنی اعمال قبیه اونها را تحت نظر دارد. حفیزون عليهم علا است. اعمال قبیه انهارشی دارد. تحت نظر دارد. الله حفیزون عليهم یعنی یحصی عليهم احصاان. خداوند اعمال اونها را احاطه کرده. همه سبت میشند همه نوشته میشوند و ما انتا علیهم بوکیل تو نیستی ای پیامبر بر آنان وکیل یعنی کارساز اونها نیستی یا زامن اونها نیستی و کذالک اوحینا الیک قرآناً عربیاً اینجا ترغیب سوی قرآن هست خب در آیات گذشته ما که وحی که بر شما خداوند می فرستاده بر انبیاء گذاشته فرستاده یکی هست. لذا شما به این وحی بسوی اون وحی بروید و این وحی را محکم بگیرید که اون وحی قرآن است. و کذالک اوحینا ایلیکا این کاف کاف بیان کمال است. یعنی از اس کمال است. کمال قدرت و کمال لطف پر وردگار است. که اوحینا ایلیکا ما وحیم كردين بسويتو قرآنا عربيا قرآن بزبان عربي لتنذر أم القرى فريزي رسول تاك قبل از همه أم القرى رب يعني أهل مكة رب ومن حولها وأطراف أم القرى أطراف مكة أطراف مكة تمام الدنيا أطراف مكة هست انجا اشاره به عمومیت بعثت رسول الله است و تنذر ایوم الجمع لا ريب فيه و بتار ثاني از روز جمع یعنی از روز قیامت اون روزی که همه انسان ها جمع می شون اون روزی که لا ريب فیه شك در وقوع اون روز نیست فریقون في الجنه و فریقون فی در اون روز فیصله میشه یک گروه در بهشت و یک گروه در جهنم پسleyin تور می گروهی به بهشت برند و گروهی به جهنم برند و قرار بگیرند اونهایی که گوش کردند حرف را استماع کردند و اطاعت کردند اونها اهل بهشتند اما اونهایی که این کار کرده اعلی جهنم هستند و لو شاء الله ل جعلهم امه واحده خدا میفرما اگر خدا میخواست همه را امه واحده قرار میداد همي انسان هارا امتي واحدة يعني همي مسلمان موحد مؤمن اما خدا انكر نكرت ولكن يدخل من يشاء في رحمته خدا ما هد كسيرك بخاطر رحمتش داخل ميگر خب هالسوال جاست كي وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحده چرا خدا این کار را نکرد؟ بهتر نبود همه ما اهل زمین چی بودیم؟ مؤمن بودیم موحد بودیم بر یک دین بودیم با هم دیگه محبت داشتیم یک کافر حتی در میان ما نبود خداوند می اگر من می‌خواستم این کار را اون وقت دنیا گلزار میشود چرا این کار را خدای از زوجل نکردند در آیه سوره مبارکه مائده خداوند جواب این را داده هست ولو شاء الله لجاع لكم امة واحدا ولكن ليبلواكم خداوند اگر میخواست شمار امتی واحده قرار بیداد اما این کار را نکرد تا شما را بیازماید تا شما را چکار بکند؟ بیازماید دنیا آفریده شده هدف دنیا و پیدایش دنیا امتحان است هدف پیدایش دنیا چی است؟ امتحان است و اگر خدا همه را اجبار مؤمن بگرداند اون وقت فلسفه از بین می هدف از بین می روید. این را بیشتر توجه بفرماید دقت بفرمایید تا بفهمید ببینید اگر خدا بخواد همه بندگانش بر مسیر ایمان و تویید قرار بگیرند خب باید اختیار را از بندگان سلب بکند به بندگان خودش اختیار ندهد وقتی که اختیار را سلب بکند خود به خود همه اجباران در مسیر ایمان و توحید قرار میگیرند اون وقت این ایمان هم به درد نمیخورد چون ایمان جبری هست ایمان مجبوری هست و اون وقت فلسفه وجودی دنیا هم از به میرود چون خداوند آفریده بود که چکار بکند امتحان بکند امتحان دیگه نشد اجبار شد لذا یه استادی به شما سوالات را بده و جوابات را هم یلا اینطور بنویس. خب این امتحان دیگه نشد این انشا شد املا شد خدای مد نظرش چی هست امتحان است. لازمه ای امتحان اینه که بندگان را خلق بکند به همه بندگان اختیار بدهد که ای بنده تو مجبور نیستی تو اختیار داری و بعد راه ایمان را هم جلوش بیزارد، راه کفر و شرک راهم جلوش بیزارد. راه بهش اختیار بده، بهش بگی فمشاء فلیومین و مشاء فلی اکفر. هر کسی راه ایمان را اختیار میکند دوست دارد بکند، هر کسی اون را پس وقتی که این را کسی راه ایمان را اختیار میکند، بهش پاداش میرسد. کسی راه کفر اختیار بکند، به جزای اعمالش میرسد. اون وقت واقعا دنیا شد داره امتحان پس خداوند عز و اگر می‌خواست همه شما امت واحده می بودید ولی خدا این کار را نکرد چون خدا می خواهد چی کند امتحانتون بکند این جواب اصلی هست لذا الله می فرمد ولو شاء الله لجعلهم لهم امتا واحدا اگر الله من خاص ان بندگان را امت واحد قرار مداد ولكن يدخل من يشاء في رحمته اما الله بعد از ايمان دادن داخل مي کنت هر کسی را که بخواهد در رحمتش اما کسان کی ايمان نیاوردن والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمان و مشرکان انها هیچ نو حامی و هیچ نو یاوری ولی ای که از اونها حمایت بکند، مشکلشون رحل کند، و یاوری که یاریشون بکند وجود ندارد. امیت تخدو من دونیه اولیه، باز هم اعاده سرزنش گذشته، اعاده زجر. خدا باز هم سرزنش میکنه، آیا گرفتن به غیل از خدا، این خدایی که اینقدر قدرت دارد و مهربان است، بغیر از این الا دیگران را به عنوان حامیان خودشون گرفتن در حالی که فالل هو الولیو کسرا به عنوان ولی شما بگیرید که دارای این صفات باشد فالل هو الولیو پس الله او هست ولی او هست مددگار او هست حامی و هو الموت و او هست اللاس او هست زنده میکنه مردگان را و هو علا کل شئی قدید و او هست بر هر چیز قادر است یعنی احیاء اموات بجای خود هر چیزی را میتواند انجام بده هر قدرتی دارد بس معنی این آیه خازن این است بقول اللہ مخازن که من یکون به هادهی الصفه کسی که دارای این صفه تست فهو الحقیق به ان یتخذ أول سزاواري إنسك إنسان ورب عنوان ولية خدش وحامية خدش انتخاب بكنات ومن لا يكون بهذه صفة كسين سفترة ندارت مثل الشياطين فليس بولية ولي نميتون باشي وحامية منتو نميتون باشي چونك الله بر هر چيز قادر است وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله تا اینجا ما توحید خاندیم اما باز هم مشرکین غانه نمی شدن با مؤمنین اختلاف داشتن خداوند از و اینجا خطاب به اونها میگوید و وما اختلافتم فیه منشین اون چیزی که شما اختلاف دارید اختلاف کردید در آن هزار چیزی فحکمه الالله فیصلش به خدا مثلا شریک برای خدا می گیرید فرزند برای خدا انتخاب می خدا خودش فیصله می چطور در خدا فیصله می کند در دنیا به این صورت فیصله می کند که اهل باطل را شکست میده اهل حق را پیروز می کند چنانچه همین کار را کردن با مسلمانان در آخرت چطور میکند می کند فریقون فی الجنت و فریقون فی السید اهل شد در جهنم می روان ذالکم الله ربی این الله است این حاکمی که اینگونه گونه میکند می کند این الله هست که رب من هست عليه توکل تو فقط برو توکل کردم فی مجامع اموری در همه امور خودم نه بر کسی دیگر فقط برو توکل کردم و الیه اونی بسوی او من رجوع میکنم، به سوی او بر می گردم چونکه این ربی که من برو توکل کردم دارای این صفات است فاطر السماوات والارض. خالق آسمان ها و زمین است او آفریدگار آسمان ها و زمین است اما بقیه نیستن که شما اونا را والی خود گرفتید جعل لكم من از واجا چقدر این مهربان است که قرار داد برای شما انسان ها من انفسکم از خودتون همسر از خودتون همسر یعنی چی؟ یعنی از جنس شما معنی این آیه نیست که همسران شما از شما متولد شدند چونکه در روایت ها می آید که حواه از از کنم که پهلوی چپ آدم متولد شد ولی بقیه زنها از مردهایشون بیوجود نی آمدند پس من انفسکم مراد از نفسی جنس است مفهومی آیا اینه که یعنی خدا بر شما انسانها لطف کرد چه مرد چی بر شما لطف کرد برای ادامه نسلتون برای ادامه بقایتون برای بقای انسانیت همسرانی از جنس خود شما برای شما انتخاب کرد برای مرد زن را آفرید برای زن مرد را آفرید دستور نداد که برید با بقیه جنس ها ازدواج کنید با حیوانات ازدواج کنید با جنات ازدواج کنید نه این لطف پروردگاری که از جنس خود شما برای شما آفرید و من الانعام از واجن و از چارپایان هم از جنس خودشون برای انها آفرید کن فی این زوجیت را خدا پیدا کرد هم در حیوان هم در انسان که یزراؤکن فی این فیه فیه سببیه هست یعنی شما را در زمین منتشر میکنه فیه یعنی به بسببیه به سبب همین جعل به سبب اینکه از همدیگه شما جفت دارید و الا اگر در هر چیز مذکر و مؤنث نبود اون وقت نسل ادامه نمیافت ببینید بعضی چیزها هستن که وقتی که ازدواج از غیر جنس باشد ازدواج و جفتگیری از غیر جنس باشد نسل ادامه نمی یابد. نسبت خدمت شما عرض کنم مثلا علاغ و اس با هم چی می شوند جفت گیری میکنه اینا دو تا جنس گرچه اصل جنسشون یکی است چی پیدا میشه قاطر پیدا میشه بعد از اون قاطر دیگه نسل ادامه از قاطر هیچ وقت هیچ چیزی درست نمیشه پس خدای از زواجل شما را که چی فرمود برای شما جفتی از جنس شما چه انسان ها چه حیوانات؟ پیدا کرد هدف چی ازرا فی؟ کفی ای به سبب جعل به سبب همین جعل به سبب همین قرار دادن جفت میخواه منتشر بکند شما را. و در زمین جمعیت شما را زیاد بکند لیسه که مثل هیشی ای. مثل هیچ چیزی نیست و هو سمیع البصیر اون ذات شنواه هست هر چیز را البصیر بینا هست به بی هر چیز له مقالید السماوات والارض این تمام دلایل توحیدن فقط و فقط برای او هست خزائن اصمان ها و زمین تمام خزائن آسمان و زمین در اختیار و در تصرف الله است یب سطور رزق لمن یشا و یقدر فراخ میکند رزق را واسی میکند رزق را برای هر ای که بخواهد و یقدر و تنگ میکند اینهو بكل شیء علیم او به هر چیزی علیم اصدان است اگر برای تو پروردگار رزق را تنگ کرده یا واسی کرده بدان که خدا میدوند در كارهاي الله حكمتاس اعتراض نكن إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين بعضهم مدعاية سورة أولهم شما خاندت كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم خداوانت هم بسوية أي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ميفر و به سوی انبیاء گذاشته هم وحی میفرستاده فرستاده وحی شما یک چیز هست اگر کسی بگوید که در کتابهای آسمانی استمداد از غیر خداست دروغه نبوده چنین چیزی این را بعدی ها اضافه کردن حال خداوند دوباره وحدت ادیان سماوی در اصول را بیان میفرماید. ای پیامبر برای شما خداوند همون شریعتی را تعیین فرمود یعنی همون چیزی را وحی کرد دستوری را صادر کرد که برای انبیاء دیگه بوده به انبیاء دیگه هم حکم کرده شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا آنچکه وصیت کرد به آن نوح را ببینیم وصیت معمولاً در دنیا اطلاق میشه برای کسی که میخواهد از اینجا برود از این دنیا برود آخرین حرفهایش را می زند و بعدا خودش فوت میکنه میره. اما در حق خداوند تو واسیت به چه مننا چون خیلی جا فروردیگار میفرداکن و ساکن به. رب شما را واسیت می کند. رب واسیت کرد پیامبران خودش را. در باره پروردگار واسیت به معای امر معقدد است دستوره با تاکید هست ببینید پدر مهمترین دستوراتی را که خیلی اهمیت دارند اونها را در آخرین لحظه به پدر به،, به سران خودش به فرزندان خودش میگه نمیگه که این کفش را اونجا بزاری اون لباس را اونجا با این چیزها کار نه در با مسائل جزی کار مسائل مهم مسائل عمده را وصیت میکنه پس وقتی که وصیت برای پروردگار بکار برده میشه بنابرای گفته مفسرین یعنی اون مهماتی که خیلی اهمیت دارند بر اونها خداون تأکید میکند وصیت خدا به این معنی است. پس ای پیانبر برای شما خداوند مشروط فرمود از دین ما وصا آن چیزهایی را برای شما مشروط فرمود یعنی تعیین کرد مشروع فرمود یعنی تعین کرد آن چیزی را که وصا بهی نوحا عمر کرد به آن نوح را دستور داد به آن نوح را والذی اوحینا الیک و آن چی که ما وحی کردیم به تسوی تو و ما وصینا و آن چی که ما تأکید کردیم و امر کردیم به آن ابراهیم و موسا و عیسی را منش اینه ببینید پنج تا پیغمبر اولو العزم هم همین هستند ما وص به نوح است والذی اوحینا الیک الیک منظور کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصینا به ابراهیم موسی عیسی این پنج خداوانده عز و جل در جاهای مختلفی باهم ذکر می فرماید پس اون اصولی که به بقیه انبیا ما تأکید و توصیه کردیم اون ون را برشما هم وحي کردين خلاصة ان چيه اينك ان اقيموا الدين <سؤال> ولا تتفرقوا فيه دين را قائم كنيد اعتقادا وعملا دين را قائم کردن كدوم دين را اي الذي جاءت به الرسل كلهم دينك همه الرسول آوردن خلاصه این دین عبادت الله وحده لا شریک له ابن کثیر نوشته و هو توحید جلاله نوشته دین را یعنی توحید را همه شما قائم کنید و لا تتفرقو فی در این متفرق نشوید در این با هم دیگه اختلاف نکنید ببینید عزیزان اون چیزی که مشترک بین همه ادیان هست همینه حتى بأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم بأن مشتركك بين ما وبين شما هست بأن كلمة مشترك بيايث همين ما جانبشي أنشي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إيه مشترك هست غیر از خدا کسی را عبادت نکنیم با خدا احدی را شریک نگیریم هم دیگر را رب و بالا سر نگیری بالا سر همه ما پروردگار است پس ان اقیم الدین این مبالغه نیست این تفسیر درست است که ان اقیم الدین و هو توحید اصل دین توحید است بدون توحید صد بار روز صد رکعت نماز بخوانی به درد نمی خوره پس بیایید دین را قائم کنیم برپا کنید و لا تتفرقو فی در این متفرق نشوید اختلاف نکنید یکی ایسا را پرستش میکنی یکی اوزیر را پرستش میکنه یکی ابراهیم و اسماعیل را یکی خورشید را یکی ما نه همه بیاییم یک معبود را پرستش بکنیم اما بعدا خداوند میفرماید فرماید کبر على المشرکین ما تدعوهم الیک بسیار سنگین است بر مشرکان آنچه که شما فرامی خاند بسوی آن اون چیزی که مشرکان را شما دعوت میدی دی فرامی این خیلی سنگین تمام میشه. اما این پروردگار است که هدایت می کند این پروردگار است که بنده خودش را برای رسالتش بر می انتخاب می کند اللہو یجتبی الیه من یشا اللہ انتخاب میکنہ بیسوی خودش گلچین میکند ترجمه زوقی گلچین میکند برای خودش کسی را که بخواهد و یهدی الیه من ینیب و راهنمایی میشه هدایت میشه بیسوی الله هر کسی که انابت و حق طلبی داشته باشد یعنی زبد و انات داشتهنا باشد او هدایت میشه یهدی الیه من ینیب پس اونی که خدا او را هدایت کند اهل انابات است اهل جستجوی حق است و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغیان بینهم این آیه جواب سوالی هست سوال اینه ببینید ما در آیات گذشته خوندیم که وحی الهی برای هم همه انبیاء یه چیز بوده به همه یک دستور داده شده که فقط یک خدا را پرستش کنید یعنی انبیاء در اصول با هم دیگه هیچ تفاوتی ندارند وقتی که در اصول با هم دیگه تفاوتی ندارند همه دستور یافتن که فقط یک خدا را پرستش بکنید چرا؟ پس اختلاف آمد پیروان انبیاء چرا با هم دیگه اختلاف دارند اختلاف را کی درست کرد چرا مسیحیان میگن که ایسا را عبادت کنید مریم را عبادت کنید چرا یهودی ها میگن اوزهر را عبادت کنید هر یکی یک سمت سوی می کشه اگر واقعا وحدت ادیان هست ادیان با هم دیگه تفاوتی ندارند اختلاف از کجا آمد قول استاد رحمہ الله اختلاف را چه کسی انداخت چرا انداخت کی انداخت ست سوال اختلاف کس نے डाला کیوں डाला कब اختلاف را کی انداخت کی انداخت چه وقت انداخت این هر ست سوال در این آیه جواب داده شده الله می فرماید دین دین واحد بوده شریعت شریعت واحد بوده برای همه انبیا اما اختلاف را ملاحای دین فروش انداختند اختلاف انداختن کار ملا و اخوند بوده چرا انداختند کی انداختند من بعد ما جاءهم العلم بعد از اینکه علم پیششون آمد یعنی دیده دانسته اختلاف انداختند چرا انداختند سومین سوال چرا انداختند باغیان بین به خاطر حسادت به خاطر حسادت مثلا در ابتدا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند پیامبر تشریف آوردند مگر ملهای یهود نشناختند شناختند فرزند خودش را چطور انسان میشناسه پیغمبر را همان شناختند الذين اتينا الكتاب یعرفونه يعرفونه كما يعرفون ابناهم در میان پنجه تا بچه میدونی که اون یکی مال منه در میان این پنجه تا آدم میدونی سه این پیامبر خداست این رسول خود یعرفون کما یعرفون ابناهم خب پس وقتی که میدانستند انکار کردن چرا؟ به خاطر حسادت میگفتند چرا فرزند اسماییل پیامبر شد فرزند اسرائیل نشد این از این از تعصب پس خداوند از و اینجا جواب داده که اختلاف را کی انداخت کی انداخت شاید بگیم که خب نمی دونست نه نمیم بعد ما جاهم العلم بعد از اینکه که علم آمد انداخت یعنی می دونست انداخت چرا انداخت باغیم بینهم به خاطر. بغض بین شان یا بخاطر حسادت بین آنان و بین دعوتگران توحید بخاطر حسادت بین آنها و بین رسول الله با رسول الله حسادت کردند پس اختلاف این خاطر افتاد و ایلا در کتاب های آسمانی هیچ بحثی از شرک و از عبادت غیر الله نبوده لزال الله يقول وما تفرقوا يعني قدماي أهل كتاب تفرق نکردند اختلاف نيمداختند إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد زين كي بيشانان علم آمد أي العلم بالتوهيد جلالين مشته نسبت به توحید علم و دانش داشتند پس ببینید از این بعد ماجاؤهم و العلم دو تا سوال جواب داده شد یکی معلوم میشه که اهل،, اهل علم اختلاف انداختند دوم دو که انداختن بعد از اینکه علم آمد اختلاف انداختند یعنی بعد از اینکه میدانستند چرا انداختند سوامین سوال بغیم بینهم ای حسدم بینهم و بین دعات توعید چون که بین آنها و بین دعوتگران توی چی بود حسادت بود به این خاطر اختلاف انداختند پس این ستا سوال جواب دادش علا سوال دیگر خب وقتی که خداون می دوند انها سرکشند، اختلاف انداختند چرا پروردگار اینها را به عذاب گرفتار نمی کند؟ الله جواب میده ولولا كلمه سبقت من ربك ان بيان امحال المجرمين چرا مجرم را خدا مهلت میده اگر سبقت نکرده بود کلمه ای از جانب رب کلمه سبقت نکرده بود یعنی فیصله رب سبقت نکرده بود خدا قبلا فیصله کرده که کی خدا این را عذاب میده ببین گروه های مختلف یهود در همین دنیا هم به عذاب گرفتار شدن خار و زبون شدن در آخرت هم خدا بیان فرموده مثلا سال دوم هجری جریان بنو قینقا پیش آمد بنو قینقاره رسول الله تارمار کرد از مدینه جلاواتن کرد چون خیانت کردند سال چهارم هجری بنو نزیر را خدای عزوجل که خیانت کردن میخواستن رسول الله را ترور بکنند و از بالای قلعهشون سنگ آسیاب بیندازند خدا تارمار کرد جلاواتن شدند و همه خانه و کاشانه و باغاتشون ازشون گرفته شد سال پنجم هجری بنو قریزه فقط منده بود بنو قریزه را خداون خار و زبون کرد وقتی که اینها مخفیانه با احزاب در جنگ خندق و احزاب دست به یکی شدند و با اونها مشارکت کردند رسول الله اونها را دستگیر کرد مردایشون کشته شدند زنهایشون همه اسیر و کنیز شدند همه دیگه به شام رفتند گریختند و تعدادی به خیبر رفتن سال هفتم هجری خیبر فتح شد و از اونجا رسول الله بیرونی نشو کرد پس خداوند برای هر یکی یک سالی، یک روزی یک مدتی تعیین کرده بود این نیست که وقتی که کوفکرها فوراً خدا بزنه به سرشون نه ولاولا کلمت اگر کلمه یعنی فیصله سبقت نکرده بود از جانب رب که تا مدت معینی است لقضی بینهم املا فیصله شد بین آنان و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم هم الکسانی که وارث کتاب قرار می گیرند ببینید ملاحا دستکاری کردم کسانی که بعدن میان تو شک هستن اینجا تو تورت این طور نوشته تو انجیل این نوشته تو فلان هنوزم در شک کرد لفی شک که من هم مریب در شکی شک هستند از آن مریب یعنی سرگردان ببینید کتاب هایشون که تحریف شده خودشون هم میدونن تحریف شده الان مثلا انجیل چندین نسخه داره چار نسخهش معروفه الان هر نسخه با نسخه دیگر متضاده تورات چندین نسخه داره پس این, این بدلیل چی هست؟ بدلیل این که دستکاری کرده اما قرآن کریم که خداوند وعده کرده بوده ازش محافظت میکنه قرآنی که در عربستان خونده میشه همون قرآن در چین خونده میشه همون قرآن در هندوستان خونده میشه در افریقا خونده میشه تمام دنیا کتاب همین یکی هست اونی که در سینه حافظ آفریقایی هست در سینه شما همون قرآن هست در سینه اونی که تو اروپا است همون قرآن هست هیچ ف... تفاوتی با هم دیگه دوتا نسخه ندارد پس ببینید اینها چون که دستکاری کردن بعدیها وقتی که آمدند و اینهم لفی شک منهم مرید در شکی از اون هستن سرگردان خب الان چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ اشرا الله به پیغمبرش میگه شما دعوت بده و استقامت کن. فلذالک فدعوا به این خاطر فدعوا دعوت بده فرا بخوان به چی چیزی فرا بخوان؟ فادعو الى ما اوصى الله به من التوحيد هم انك ما وصينا به نوحا والذي الدين التوحيد پس شما دعوت بده اون واستقم كما امرت واستقامت بكم پیشنهاداتی کنها میدهند برای مصالحه برای مدارات برای مداحنت و نرمش اختیار کردن اینا را قرآن میگه خواهی نفس شما پیروی نکن شما علماء اگر در جایی هستید که طرف مقابل از شما خواهش میکنه تقاضا میکنه بیاید با هم وحدت میکنیم شما اینقدر تن نرو اینقدر نگو یک مقدار آرامتر یک مقدار نرمتار گرچه نرمش در روش باید نرمش باشه اما حق باید کتمان نمیشه اگر کسی کتمان بکند این دیگر از خواهشات دیگران پیروی کردن است ولا تتبع اهواهم و وقتی که از شما مطالبه میشه که شما از اونها پیروی کنی شما با اونها کنار بیا قل و قل آمنت بما انزل الله من کتاب من ایمان آوردم به اون چیزی که خداوند نازل کرده من کتاب من کتاب جنس یعنی هر کتابی که منزله من الله است من به همه کتب سماوی و آسمانی ایمان آوردم و امرت لأعدل بینكم و من دستور دارم بین،, بین شما عدالت کنم عدالت در چی؟ فی التأويلات والاختلافات در و اختلافات من ادالت کنم. الله ربنا و ربكم این بیان عدل الله رب ما هم هست. رب شما هم هست. لنا اعمالنا ولکم اعمالكم برای ما اعمال ماست. در آسر ما و برای شما اعمال شماست. لا حجت بيننا و لا لا حجت انجام معنی اختلاف است. یعنی بعد از کتاب الله دیگه اختلافی بین ما و بین شما نیست یا دیگه دلیلی بعد از کتاب الله نمیتونه باشه این کتاب خداست چرا شما این را قبول نمیکنید؟ الله یجمع بیننا خدا ما رو جمع می کند بین ما خداوند جماوری صورت میدهد و الیه المصیر فقط و فقط بسوی اوس بازگشت خب ما اون چی که تا اینجا خاندیم اینه که همه که ادیان سماوی وحیشون یکی هست اصولشون یکی هست اختلافی نیست اختلاف را و کتاب های آسمانی را ملاهای دین فروش دستکاری کردن تغییر دادند وقتی که اونها دستکاری کردند و تغییر دادند خب این بیچارهایی هایی که در زمانهای بعدی آمدند مثلا در زمان رسول الله آمدند تنها تحریف تورات در زمان رسول الله نبود در زمان ایسا بود در بعد از خود موسیٰ صلی اللہ علیہ دستکاری کردند و تغییر دادند تا برای خودشون تسهیل بکنند خیلی چیزها را حس بکنند خیلی چیزها را که مربوط به از کنم مادیت و شکم و شکم پروری بود اضافه کردند ما ببینید همیشه چیزی در دین اضافه میشه که به نفع چی باشد به نفع انسان و به نفع شکمش باشه همیشه شما خرافات را دقت بکنید مطالعه بکنید خرافات خلاصه میشه تو سفره ها یعنی چیزی که مردم اضافه میکنند بیشتر چیزهای را اضافه میکنند که به نفع مادیشون باشه مثلا به عنوان مثال عرض میکنم کسی که میمیرد بعد از اون این مراسم درست میشه که همه این مراسم به نفعش شکم است. بخور بخور است روز سوم و روز هفتم و روز چهلم و سال و سالهای بعد و همش به اون چیزی که درست میکنن اضافه میکنن به نفع خودشون درس میکنن چیزهای روایتایی که برای هر چیزی فلان تاوان را بده فلان مال را بده معافی دیگه نمیرم زیاد در عمق مسئله لذا همیشه امروز هم مثلا تو کلیسا کسی میاد پیش اون پدر روحانی میگه غرق گناهم سال یک بار میاد مبلغی اونجا میده اون پدر روحانی اون رو میبخشه گناهانش را پاک میکنه اینا همه چیزهایی هستند که بالاخره به نفع جیبشون هستند و بالاخره اضافه کردن در دینشون بس در اون دینشون چیزی را اضافه کردن که به نفع دنیایشون هست لذا سوال انجاست که وقتی که پیشینیان کتابها را دستکاری کردند این بعدی ها وقتی که آمدند اینا گناهی ندارند اینها به اون کتاب لگاه میکنند و تو اون کتاب هرچی میبینند به اون عمل میکنند نباید اینها مغصر باشند مثلا یهودی که در زمان رسول الله صلی علیه و وسلم بودند خب ملها علائم را می تغییر دادند بعدها عوام وقتی که آمدند و در همون زمان وقتی که عموم مردم بودند یا بعدها آمدند خب اینها متوجه نشدند که چی شد آیا اینها هم گناهکارند؟ اینها معذور نیستند؟ خداوند می نه خیر معذور نیستند چرا؟ چونکه چند چیز اینجا هست که باید به اونها اینا انتقاب بکنند یک والذین يحاججون في الله من بعد مستجيبله کسانی که درباره توحید محاجمی کنند، بحث می کنند، اختلاف می کنند. بعد از اینکه اجابت شده برای آن. ببین دلیل اولینه که اجابت شده از طرف علمای خودشون مثلا یک عامی یهودی اختلاف میکنه و میگه من قبول ندارم ببین عالم خودت ایمان آورد بزرگترین عالم یهود که عبدالله ابن سلام است با مجموعه شاگردان و مکتبش اونا ایمان آوردند من بعد ما استجیب اشاره به این است که والها في له جوز ان يكون للله الزجل ا بعد ما وحد الله و شاد له بالوحدانیه بعد از اینکه از سو ولما یهود دعوت پروردگار اجابت شد اون عالم کلان که مرج تو هست رحبل تو هست او ایمان آورد تو دیگه ذری نداری او میفهمد یک چیزی پس این از کنم که دلیل اول که عذرش پذیرفته نیست پس والذین یحاجون فی الله ای فی توحید الله کسانی که درباره باره توحید خدا چی میکنند درگیر میشوند من بعد مستجیب له بعد از این که اجابت شد برای توحید پروردگار از سوی علماءشان حجتهم داحظهٔ اند را بین پس دلیل اینها باطل است از پرواز دکار دحزم میگن چیزی که افتاده باشد از بین بره به معنی باطل است و عليهم غضب بر آنان غضب هست و لهم عذاب شدید برایشون عذاب شدید چرا؟ چون که ارز کردم چون که کلام ترش بالا ایمان آورد. خیلی از علماء اهل کتاب ایمان آوردند. تنها عبدالله ابن سلام نیست هم از یهودی ها هم از مسیحی ها نجاشی با تمام اولمایی که اونجا در عبش بودن ایمان آوردند. ادی ابن حاتم ایمان آورد غیر از اون عبدالله ابن سوریه یکی دیگر از ابن سوریه معروف است او در مدینه ایمان آورد و بعضی دیگر از علماء تو تفاصل اسمشون آمده از یهودی ها اینا ایمان آوردند خب الان کسی بگه که کتاب تورات پس چرا اون علمای تونی من دوم عذر نداری چرا چون کتاب را نگاه کن الله الذی انزل الكتاب بالحق والميزان این دفع عذر دوم است رد عذر دوم است خب تو عقل داری خرد داری کتاب قرآن را مطالعه بکن تعصب را کنار بذار سائمی کنند باطل که پیروانشان به قرآن نزدیک نشوند به همین خاطر گفتند لا تسمو لحظ القرآن اما اگر برای مدتی بعضی از افراد بدون تعصب قرآن را نگاه کنند فوراً گرویده قرآن میشان پس دلیل عدم عذر دوم چیست اللہ الله انزادی است که انزل الكتاب کتاب را نازل کرده بحق نازل کرد والمیزان واو واو تفسیری هست یعنی این ترازو هست قرآن چیست ترازو انسان به وسیلی میتونه وزن بکنه حق را از باطل تشخیص بده بعد از اینکه خداوند دلائل ادم از را بیان فرمود حال تخویف بیان میفرمد وما یدریک لعل ساعت قریب تو خبر نداری شاید قیامت چی باشد اینجا لعله بمعنی امید است اما امید به یقین است قطعا قیامت قریب است اما کفار مشرکان قیامت را مسخره میکنند میگفتند که کی میاد یا استعجلوا لا یؤمنون بها اجل میکنن برای اون ساعت و قیامت کسانی که ایمان ندارند یعنی کسانی که ایمان ندارن مسخره میکنن و میگن زود والذين آمنوا مشفقون منها أما أن هايك إيمان دارم بقيامة إيمان أورد ميتا سن أزقيامة ويعلمون وميداند أنها الحق قيامة برحقة أز قيامة أسترفي الله واقمشه ألا خبر دار إن الذين يمارون في الساعة هم أنا أن هايك شك دارند القيامة لفي ضلال بعيد در جمراهيه بدورز حق استند خب حال الله لطیف این هم جواب سوالی هست سوال اینجاست که وقتی که اهل باطل بر باطلند و اهل ایمان و اهل توحید بر حق هستند خب چرا خداوند به اهل توحید مال فراوان نمیده سرمایه زیاد نمیده در همین دنیا در عیش و نوش اونها را قرار نمیده خداوند میفرماید که این اسرار را خدا بهتر میداند یعنی بنابر حکمتی است هرسی بسیاری از حکمت ها را اگر ما کافی بکنیم میتونیم پیدا بکنیم اون اینه که خیلی وقتی که انسان سرمایه داشته باشه همه مردم در رفاه باشند این باعث غفلت میشه باعث حب بیشتر دنیا میشه باعث انحماق و استقراق در مادیات و در دنیا میشه باعث فراموشی از خدا و از آخرت میشه حکمت های زیادی است اما خیلی از حکمت ها را ما نمیدونیم دو تا برادر هستند یکی را خداوند میلیاردر قرار داده یکی فقیر است برای نان شبش مونده چرا خدا بهتر میدونه لذا اینجا جواب این سوال هست که وقتی که خداوند کفار را دوست ندارد مؤمنین را دوست دارد چرا نسبت به مؤمنین رزق و روزی فراوان نمیدهد الله میفرماید الله لطیف و خداوند نسبت به بندگانش بهتر میداند البته لطیف دو معنی دارد یکی از لطف است به معنی مهربان یکی از لطافت است به معنی باریک بین یعنی ظرافت ها را می بیند و میاند شما نمیدونید الله لطیفن یعنی خداوند باریک بین هست نسبت به بندگانش خوب می داند که بندگان امور خفیهشون را هم می داند و مسالهشون را می داند امور جلیه و ظاهرشون را همه را می داند یارزق من یاشه هر کسی را که بخواد رزق میده و هو القوی الاسیس اون ذات قوی هست و اون ذات غالب هست یعنی اگر بخواهد ضعف ندارد که ندهد نتواند بدهد غالب هست میدهد ولی حکمت را مسالح را در نزد پس اگر کسی را خدا فقیر قرار داده قطعا مسلحتش در فقر جوش نزند نراحت نشود برای او همین فقر خیر هست کسی را اگر خدا زیاد داده او بیاد خدا باشد قطعاً مسلحت او در همین مال زیاد هست پس که الله لطیف و باریک بین هست زرافت ها را میداند نکات را میداند منکانه اما اون چیزی که مهم هست اینه خداوند میفرماید چه داری چه نداری برای آخرتت کشت بکن ببینید برای دنیا کسی میتونه سرمایه گذاری بکنه که مال داشته باشه کسی که داشته نباشه اون نمیتونه. اما برای آخرت همه میتونه سرمایه گذاری بکنند. تو که داری هم میتونی برای آخرت سرمایه گذاری کنی. تو که نداری هم میتونی سرمایه گذاری بکنی لذا پروردگان دیگر میفرماد بیت مال دادم یا ندادم سرمایه داری یا گداهی ولی سرمایه گذاری کن برای آخرت برای آخرت برنامه ریزی کن بیکار من کانه یریدو حرث الاخره هر کسی اراده دارد کشت آخرت را نزد لهو فی حرثی ما می در کشت آن هرچی که او برای خودش بکارد ما چند برابر می او یک تمن میده ما حفظت تمنش میکنیم او نماز می ما چند برابر اجرش میدیم او ذکر می کند هرچی بر اساس اخلاص ما چند برابر برایش زخیره میکنیم. و من کانه یرید و حرصت دنیا هر کسی اراده دارد کشت دنیا را برای دنیا خودش فقط برنامه ریزی می کند منها ما می دهیم او از آن دنیا و ما لهو فی الاخرت من نصیب اما اینی که فقط و فقط برای دنیا برنامه ریزی می کند نیست برای اون در آخرت هیچ سهمی هیچ سهمی برای در آخرت وجود ندارد عمل لهم شرکاء خب این در وسط یک سوالی بود که چرا مؤمنین ندارند خداوند جوابش را بیان فرمود و ترغیب به سوی آخرت و تزهید من دنیا بیان فرمود اما دوباره برمیگردیم به اون موضوعی که عبادت فقط برای خدا باشد فریاد فقط خدا را باشد آن اینجا استفهام میفرماید سوال میفرماید که اینهایی که غیر خدا را عبادت می کنند فریاد میزنند، مشکلاتشون را میخوان، مگر این غیر خدا برایشون شریعتی درست کردند برای اونها حکمی و دستوراتی ایجاد کردند ام لهم آیا برای این مشرکان هست شریکانی که شرعو لهم من الدین مشروع کردند و جائز کردادن برای اونها از دین ما لم یعظم به الله اون چیزی که خداوند یعنی تعیین کردن برای اونها از دین اون چیزی که خدا اجازه نداده خدا فیصله نکرده خدا دستور نداده آیا یعنی آیا این معبودان شما چنان قوانینی چنان دستوراتی برای شما تعیین کردن چیزی که خدا خبر ندارد نخیر معبودان اونها از خودشون خبر ندارن تا چه برسد برای اونها شریعتی ایجاد کنند اینجا خداون تخویفه دنیاوی باید می فرماید ولو لا کلمت الفصل اما کلم اگر نبود کلمه فصل یعنی خدا فیصله فرموده که کی ازاب بده لا قضیه بینهم عملت در دنیا بینشان فیصله می و این الظالمین لهم عذاب علیم همان ظالمان برای انهاس عذاب دردناک تر الظالمین مشفقین می بینی ظالمان را که می ترسند از آنچه که کسب کردند يعني از الشرك می از جزاء الشرك می ترسند ولي ترسند واقع ميشه وهو واقع بهم وهو واقع يعني عذاب گرفتار ميشه أما اما مؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن فی روضات الجنات در باغات بهشتستن لهم ما یشاؤون عند ربهم برای است آنچه که بخان نزد پروردگار ذالک هو الفضل الكبیر این فضیلت است. این هست فقط این فضل بزرگ و انعام و پاداش بزرگ از جانب الله تعالی و بعد فضیلت بهشت خداوند بیان می‌فرماید ذالک الذی يبشر الله عباده الذین و وعملوا الصالحات این آن چیزی است که بشارت میده مجد میده خداوند بندگان خودش را اون بندگانی که آمنو ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خدا اونها را مجد میده خدا به اونها پاداش میده بهشت میده اما ای پیامبر تو اونها رو ترغیب به اعمال بده قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربه بانان بگو بقامت بگو ای قوم ای ملت من بعد سوال نمیکنم بر این تبلیغ از شما هیچ اجری الا الموده في القربه مگر موده در قربه این آیه معروف است به آیه مودت این آیه اگر کسی اصلاً قط نظر از بقیه تفاصیر به خود آیه نگاه بکنن مفهوم آیه خوب متوجه میشه اما این قط قیل و قال کردن تو این آیه این قط بگو مگو کردند که اون تفسیر درست آیه از بین رفته لذا در این آیه چندین نوع تفسیر است بسیاری از این تفسیر تفاسیر نادرست هستند و بسیاری درست هستند ببینید عزیزان ما میگویند این آیه درباره اهل بیت است خوب دقت بفرمایید این آیه درباره اهل بیت است مفهوم آیه میگویند اینه لا اسالکم علیه اجران من بر این تبلیغ و بر دین که به شما میرسانم بر توحید اجر و پاداشی دیگه نمیخوام مگر باخی شامندان من دوستی بکنید با اهل بیت من دوستی بکنید دوستی با اهل بیت بعدن چی میشه؟ این که با اونها محبت بکنید حق اونها به شون بدهید حق محبت را داشته باشید حق خلافت بعد از من را به اونها بدهید اینم جز اون دوستی هست این تفسیری هست که عموما گفته میشه به خصوص در کشور ما بیشتر همین تفسیر را میکنند من میخوام این نکته اول خدمت شما عرض کنم که اینکه دوستی کردن با اهل بیت جز ایمان از هیچ مسلمان تو این شک ندارد در احادیث زیادی ما داریم که دوستی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دوستی با خود رسول الله است کسی خود رسول الله را دوست دارد باید اهل بیت شر، دوست داشته باشد و محبت اهل بیت از ایمان است، هیچ شکی نیست و ما معتقدیم اونقدر که ما محبت داریم با اهل بیت اونقدر که ما اونها را دوست داریم اون وقت که در دل ما هستند در دل هیچ کسی نیست تشهد ما، از کنم خطبه ما، نکاه خطبه نکاح ما، خطبه جمعه ما همه اینها شاهد بر این امر هستند که هیچ جمله و خطبه از ما تمام نمیشه مگر محبت و دوستی احل توش نباشه درودی که ما میفرستیم سلواتی که بر رسول الله میفرستیم اما آیا مفهوم این آیه اون هست ما معتقدیم نخیر مفهوم این آیه چیزی دیگه است. کسانی که این طور میگوین اونا آیه را خوب نفهمیدند چونکه که بیش دلیل من عرض میگو اگر این مفهوم را بگیریم اول آیه و آخر آیه با هم تاروز میشه اول ای مردم من از شما عجلری نمیخوام آخر آاس ال مواد تفلقررب فقط این میخوام که با خیشاوندان من محبت بکنه پس عجل خواستن دیگه با اونها اونها رو دوست بدارید به اونها لطف داشته باشید در حالی که اینجا بحث بحث خانواده و خیشاوندان نیست. بلکه الان تفسیر صحیح آیه را میخام عرض کنم دو تا تفسیر هستند تفسیر اول قربا به همون معنای قرابت خیشاوندی مفهوم آیه این هست این تفسیر از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس مفسران است نقل شده ای مردم من بر این تبلیغ بر این که توحید خدا را به شما میرسانم پیام خدا را به شما میرسانم اجر نمیخوام مگر این را میخوام که محبت در باره قرابت با من بکنید یعنی من با شما قرابت دارم رسول الله صلی الله علیه و سلام با تمام تیره های قریش مرتبط بود جدشون آخر یکی میشد مثلا اون قرابتی که بین من و بین شما هست اون خیشاوندی که بین من و بین شما هست به خاطر اون قرابت به خاطر اون خیشاوندی با من رسول الله محبت کنید دشمنی نکنید نه اینکه من با من محبت بکنید به من لطف کنید به من چیزی بدید نه بلکه اون محبت و اون خیشاوندی را واسطه قرار میده که مانع کار من نشید مزاحم کار من نشید جلوگیری من نشوید به این معنا هست میبینید شما میخواهید که پیش فامیلیتون قومتون طایفیتون راهنمایی بکنید قبل از راهنمایی چکار کار میکنید می دلسوزی خودت را به انها نشان بیدی و بین خود و بین اونها همین سل رحمی که هست غرابت و خویشاوندی که هست اون واسطه قرار میده که حرف من گوش کن میگه آقا ای پسرمو من پسرمویت هستم این کار را بکن وقتی که میگه من به سر مویت هستم یعنی این به خاطر سلسله رحمی که بین من و تو هست حرف منو گوش کن پس خداوند رسول اکرم صلی الله علیه و اینجا دستور مییابد که خیشاوندی که بین او و بین قریش هست این خیشاوندی را واسطه قرار بدهد برای دستور خدا که این را من واسطه قرار میدم به خاطر خیشاوندی شما حرف منو گوش کنید شما توحید خدا رو قبول کنید به خاطر اینکه من خیشاوند شما هستم و اگر شما گوش نمیکنید حداقل مانع کار من نشید بذاری من تبلیغ میکنم من اخی از خود شما هستم من برادر شما هستم پس رسول الله صلی الله علیه و قرابت و خیشاوندی رو چیکار کردن واسطه برای تبلیغ توحید قرار دادند دقت بفرمایید که ما ابن کسیر عیناً همین را نوشته لا اسالکم على هذا البلاغ والنصح ما لن تعطونیه لا اسالکم عليه اجراً من بر این تبلیغ و بر این نصیحت و خیرخواهی مالی نمیخوام که شما به من بدهید وانما اطلب من اطلب منکم ان تكفوا شرکم عنی از شما نمیخوام که شرتون شر را از من باز بیدارید و تزرون مرا بگذارید ابلغ رسالات ربی یعنی من خیشاوند شما هستم بگذارید که من پیام ربم را برسانم ان لم اگر مرا یاری نمی فلا تؤذونی من اذیت نکنید بما بینی و بینکم من القرابه چون بین من و بین شما قرابت است به خاطر این قرابت محبت را در نظر داشته باشه بغض و دشمنی نه مودت فی القربه مودت و محبت در چی؟ در خیشاوندی بکنید محبت در خیشاوندی یعنی جلوی کار من نگیر بذار من خیشاوندی تو هستم بذار من حرفم را بزنم به این معنی هست آیه حضرت عبدالله بن عباس ازشون نقش شده تفسیر مظهری میگه عن ابن عباس يعني ان تحفظوني لقرابتي وتصل وتصلوا رحمي بخاطر قرابتي كمان دارم از من محافظت كنين نكي ان دشمن من باشيد دنباله كشتن من باشيد و مودت بكوني سل رحمي داشته باشيد سل رحمي هميني كي بشينيد با من حرفي من قشت كنيد من خير خواهم من نسيهت میکنم شمارا و تفسیر قرطبی نوشته: "ان تودونی قرابتی منكم کم، ما بینی و بینکم یعنی با ما محبت بکنید رعایت بکونید رعایت بین من و شما خیشاوندی که دیکی هست سرال رحمی که از انسال رحمی رخیش آن رعایت بکنید، فتسدیقونی من تصدق بکنید. بس ببین در همه این تفسیرها که تفسیر جمور همه است در همه این تفسیرها چکار کرده؟ نه اینکه که دین را فدای قرابت کرده بلکه قرابت را فدای دین کرده یعنی من و با شما خیشاوندم به خاطر خیشاوندی توحید خدا را قبول کنید اگه قبول نکنید دقیقا حرف من گوش کنید مزاحم کار من نشید این هست مفهوم اصلی آیه مودد این یک تفسیر که قربا به معنی چیه؟ قرابت خیشاوندی تفسیر دیگر که این هم از صحابه و تابین منقول است اون اینه که قربا به معنی قرابت و خیشاوندی نیست قربا به معنی تقربه است مثل زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله ظلفه مانع آیه این هست اصلا بحث خیشاوندی را پاک کنید از ذهن اینجا بحث خیشاوندی و سل رحمی نیست چون بحث قبل از این و بعد از این بحث چی بو بحث عمل بود یا نبود بحث تزهید بین دنیا و ترغیب الالآخرت بود یا نبود اگر این معنا را بکنیم با ما قبل و ما بعد بیشتر این آیه مرتبط است ارتباط دارد چطور؟ معنی آیه میشه که ای،, ای قوم ای مردم ای ملت لا اسألكم عليه اجران من برای این تبلیغی که دارم میکنم خیرخواهی که میکنم از شما هیچ اجری نمیخوام الا المودت فی القربا مگر میخوام که دوستی بکنید و مودبت بکنید در چی؟ در این که قرب خدا را عزل کنید تقرب خدا میخوام که به خدا نزدیک بشید من فقط این از شما میخوام شیرا میخوام؟ به خدا نزدیک بشید تفسیر خازن نوشته إلا أنتواد الله وتتقربوا إليه بطاعته الله بطاعته من دیگه چیزی نمیخوام میخوام با خدا محبت کنی توادو الله و تتقرب الهی بطاعته بطاعت خدا به خدا نزدیک بشید بس قربا به مانه چی شد؟ تقرب به مانه زلفا بحث خیش اصلا نیست ارس کردن این معنی با سیاق ارسی بسیاری از محققین همین معنی را کردن جمهور و معنی اول را کردن با سیاق این معنی دوم بیشتر رب داره چون قبل از این بود منکان یورید و حرف در آخره بحث بحث کشته آخرت هست بعد از این ببینید چی هست بحث خیش آمندی نیست و من یقترف حسنتا هر کسی که حسنتای کسب بکند یعنی کاری خوبی انجام بده کاری خوبی انجام میدن قرب خدا را حاصل میکنید. دیگه هر کسی کاری خوبی انجام بده نزید لهو فیها حسنا مامی افضاییم در آن یعنی عجر خوبی را پس این و من یقترف حسنتا بیشتر تعیید میکند همین تفسیر دوم را که من محمد از شما چه میخوام که طاعت بکنید بندگی کنید کار خوب بکنید تا تقرب خدا را حاصل کنید نزدیک شدن به خدا را حاصل کنید چرا؟ چونکه و من یقترف حسنتا هر کسی کسب بکنند یقترف یعنی یقتصب هر کسی کسب کنند کار نیکی نزید لهو فيها حسنا ما باندازه نیکیش بی او پاداش نمی بلکه پاداشش را می افضائیم نزید لهو فيها حسنا یعنی پاداش اون حسن را برایش می افضائیم اِنَّ الله غفور شَكُورٌ هَمَانَا الله غفور هست، بخشاینده هست، شکر و قدردان هست خداوند چی هست؟ قدردانه بندگانش هست ام یقولون افترا اینجا خدای عزواجل سرزنش بیان فرمید زجر با نقل قول هست با وجود این همه خیرخواهی و این همه نصح رسول الله اونها به پیغمبر میگفتن این را از خودش درست کرده ام یقولون ای بل یقولون بلکه اینها میگویند افترا علی الله کذب و بر خداوند کذب و دروغ را افترا کرده از خود درست کرده می الله میفرماید فین یشاء الله یختم علی قلبک اگر خدا میخواست بدنامی و رسوایی تو را دلت را مهر میزد منش اینه که اگر کسی برای خدا را بگویت خدا خودش جلوش را می گیرد ولی شما روز بروز کارت بپیش می ره. روز کارت به پیش میره همین که روز به روز ترقی داری روز بروز روز پیشرفت داری روز بروز پیروانت بیشتر میشه اطرافش شلوغتر لختر میشه مؤمنین بیشتر میشن بلاد بیشتری فتح میشه این دلیل حقانیت هست کسی بر خدا افترا بگویت خدا فورا جلویش را می گیره نمیگذاره به پیش بره بس و الله الباطل الله عز وجل باطل را از بین میبرد و یحق الحق و حق را ثابت میفرماید تثبیت میفرماید بکلماته یعنی با ارشاداتش یا بعضی گفتم بکلماته با از کنم که دستورات تکوینی یعنی در عالم کون خداوند فیصله فرموده که حق پیشرفت بکند باطل از بین برود پس با اون کلماتی که الله ارشاد فرموده در عالم تکوین و دستور داده که حق پیشرفت بکنه، باطل نابود بشه روز بروز شما چکار میکنید؟ ای رسول الله شما با دینت بپیش میری انهو علیم بذات صدور حَمَنَ أَنَّهُ ذَاتُ عَلِيمٌ حَسَدَانَا بِأَسْرَارِ صِنَّهَا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ والكافرون لَهُمْ عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ صدق الله رضي محمد. اللهم على محمد و اله ما فهم آیه گذشته اتهامی که مشرکین و مخالفین رسول الله صلی الله علیه و سلم بران حضرت وارد می اون اتهام ذکر شد و پاسخ داده شد ام یقولون افتراح آنان می گفتن که على عياذ بالله يشون افترا و خلاف ميقويت وخداون فرموت فإن يشاء الله يختم على قلبك يعني اگر چيني چيزي بود خدا ميخاست قلب شمار مهر مزت ادامه نمي اجازه نمي داد ادامه بده اما برعكس ويمحو الله الباطل ويحق الحق خداوند باطل را داره از بین میبره و حق را تثبیت میفرماید پس این نشانه حقانیت شماست نشان اینه که من جانب الله شما فرستاده شدید بعد از این خداون ترغیب میده بسوی توبه کسانی که این اتهام را میزنند کسانی که کفر و انکار میکنند ترغیب میدو بسوی توبه و برکات توبه را بیان می فرماید و هو الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَتَ عن عباده خداوند بسیار مهربان است هر جا که از کفر و از انادو، و از زدیت دشمنان خودش سخن میگوید در همون جه صفات رحمت بیان می فرماید معنیش اینه که با وجود که با خدا و رسول خدا دشمنی می در توبه برق بازه و هو الَّذِي يَقْبَلُ التوبة. الله اللَّهَ هست که توبه را از بندگانش و توبه چنان برکاتی داره که و یعفو عن السیئات به برکت توبه خداوند همه گناهان را عفو می فرماید اما یک چیزی در توبه مهم است اخلاص برای خدا باشد و یعلمو ما تفعلون میدانند آنچه آن چه که شما انجام می دهید یعنی اگر شما از ته دل توبه بکنید خدا میداند اگر ظاهر باشد هم میداند و دیگه از برکات توبه چی هست و یستجیبو الذین آمنو الصالحات و الصالحات ويزيدهم من فضله یستجیبو اینجا به معنی یجیبو هست تفسیر روح المعنی نوشته و یجیبو دعا اهم یعنی چه؟ یجیبو دعا اهم خدا دعایشون را قبول میکند. دعای کی را قبول میکند؟ دعای مؤمنین را و یستجیبو الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله خداوند می پذیرد، قبول می کند دعای کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و می افضایت در آنان فضل خودش را یعنی نه تنها دعایت را قبول می به تو لطف اضافی هم می کنه. لطف اضافی از آنچه که می خواهی به تو می کنه خدای تعالی ببینید از این آیه اینطور معلوم میشه که فقط دعای مؤمن پذیرفته میشه و یستجیب الگین آمنوا و عملو الصالحات آیا دعای کافر پذیرفته نمیشه؟ دعای کافر قبول نمیشه؟ مثلا یه مشریکی یه کافری دعا میکنه خدایا فلان چیز را به من بده بچه من را حفظ کن بچه من مریض است سلامتی بهش بده هرچی که کفار در دنیا میخواهند اینها پذیرفته نمیشه قبول نمیشه فقط دعای موامل قبول میشه چونکه اینجا آمده و یستجیبو الذین آمنو و عملت صالحات اصلش اینه که بسیاری از علما که جمعیتشون کم هستن غلیل هستن معتقدن با توجب بین که دعا یک اعزاز است یک اکرام است دعا فقط دعا مسلمان قبول میشه این اعزاز و این اکرام لایق کافر نیست این اعزاز لایق کافر نیست دعا کافر قبول نمیشه بعضی از علماء این اعتقاد دارند. اما جمهور معتقد است که دعای کافر و مؤمن قبول میشه اما علت فرق میکنه قبولیت دعای مؤمن تشریفا و تکریما و اعزازن هست خدا به او او را او را اکرام می فرمایت او را اعزاز می خدا تعالی به اول لطف میفرماید دعایش را قبول میکند، اما دعای کافر استدراجان قبول میشه. دعای کافر همچی استدراجان، این نوع امتحان برایش هست. بیشتر تو کفرش میمانه. به چه دلیل؟ ببین ما آیات زیادی در قرآن کریم داریم که دعای کافر قبول میشه. در سوره مبارکه انعام هست قل من ینجیكم من ظلمات البر و البحر از آفات و مسائب و تاریکی های بر و بحر کی شما رز نجات میره ای مشرکین تدعونه تضرعا و خفیا در حالی که شما دعا میکنید خدا را فریاد میزنید هم در اون وضعیتی که تو مصیبت گرفتاد میشید تضرع تضرع میکنید و خوفی آهسته است خدا را صدا میزنید و میگوید لا ان جانا من هذه لنكونن من الشاكرین خدای اگر از این جمع را نجات دادی ما از بندگان سپاسگزار و شاکرت میشیم بعدن خدا دعا را قبول میکنه شما را نجات میده باز هم شرک میکنید پس از این آیه معلوم میشه که خداوند دعا کافر و مشرک رحم هم گاهی می یا خداوند می فرماید آیه معروف فاذا اذا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین مشرکین وقتی که سوار کشتی می خدا را فریاد می مخلصین له الدین مخلصین له الدعا دعایشون رفقت برای خدا و خالصتا از خدا می خاند. فلما نجاآهم یلا البر ایذاهم یوشريكون خدا وقتی که نجاتشو میده به کش به میاره دوباره شرک میکنن پس میبینی اینا مشرکان که دعا کردن آیه سریان میگه خدا نجاتشو میده نجاتشو میده بعد از دعایشون. دعا پس اشاره به این هست که استدراجان و امتحانان دعایش چی شد، بازی شد، قبول شد. یا سوره مبارکی یونس هست وَإِذَا مَسَّلْ انسانَ ضُرٌ دَعَانَ لِجَنْبِهِ اَوْ قاعدا اَوْ قائما وقتی که به انسان منظور انسان مشرک وقتی که به انسان مصیبتی می رسد دعا می کنه از ما می خواهد لجنبه بپهلو افتاده او قاعدا یعنی نشسته او قائما یا استاده فلم کشفنا عنه ذره وقتک مصیبت را ازش دور میکنیم که الام یضعنا الا ضر نفسه گویا اون ضرر و آسیبی که بهش رسیده بود مارا برای اون نخان یعنی ما فراموش میکنه دوباره غفلت میکنه بس اینجا همه این ایت میگه که کافر هم گاهی دعا میکنه خدا تعالی دعایش را قبول میکنه یا و اگر مسال انسان ذر ذر دعا رب‌ه‌و منیباً ایه. هر وقتی که بیانسان مصیبتی آفتی براسد رب بشرا صدامیزه منیباً ایه رجوع بس بسی خدا میکنه و دعا میکنه. ثم اگر خوّله نعمت منه نزیه. وقتی که خدا بهش نعمتی میده خود نعمت که خدا ده نتیجه همون دعاش است. فراموش میکنه. بنابراین دعایی که کافر گاهی میکنه مشرک میکنه گاهی برای موفقیتش گاهی برای پیروزیش گاهی برای سلامتش گاهی برای فلان نعمت خدا گاهی اگر الله مسلحت بدوند دعایش را قبول میکند اما این نو استدراج برایشون هست تدرجهم من حيث لا يعلمون و واملي لهم ان كيدي متين ان الله تفسیر و تشریح دروس این آیات را می اما مومن که دعا میکند اعزاز برایو هست اکرامی برایو هست دعا را خداوند میپذیرد و اون چی که بهش میده در این دنیا هم میده در اون دنیا هم بهش میده بس نوعیت پذیرش فرق می کند به این خاطر اینجا دعای مؤمن را آورده الله می فرماید و الذين الذین امنوا وعملوا الصالحات و یستجيب ای دعاءهم روح المانی گفته دعای شان را می پذیرت دعای چه کسانی را الذين امنوا انهایی کی ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و یزیدهم من فضله و نه تنها دعایشون را قبول کند بلکه از فضل خودش الله اضافه به اون حمیداهر اما والکافرون لهم عذاب شدید این تخوی اخروی است این در آخرت است برای کافران عذاب شدید هست عذاب سخت خب سوال دیگری که در آیات گذشته هم این سوال بود اما اینجا با شرح و ادبیات جدیدی هست سوال اینه وقتی که بنده اینقدر محبوب خدا هست بنده مؤمن، خدا اونو دوست داره که دعاش را قبول نمی... قبول کنه چرا به بندگان خودش مال زیاد نمیده، سرمایه زیاد نمیده؟ مؤمنین در فقر استند در ابتدای اسلام هم مؤمنین در سختی به سر می بردند گرست نبودند گاهی به شکم سنگ می و الان هم بیشتر گرستنگان دنیا مومنین هستند اهل ایمان، اهل اسلام هستند وضعیت کفار بهتره خب وقتی خدا دوستشون داره محبوب خدا هستند چرا بهشون رزق زیاد نمیده روزی فراوان نمیده الله جواب میده ولو بسط الله رزق لعباده اگر خدامت فراخ بفرماید گشاده بفرماید رزق را برای بندگانش لبغو فل الارد زیر بغو بنویس عموما چون این قایده کلی نیست قایده عمومی و اکثری هست عموما در زمین اونها سرکشی میکنند تمرد میکنند عموما سرکشی میکنند همین فقر به نفشون هست گایی شوخی شوخی به طلاب می گویم همین که ندارید به نفع تو نسویلہ تو این حوزه بای مشکلات نمی ماندید اگر شما همه دا چیز داشتید ساختمان و ماشین و سرمایه و تجارت دبی و تجارت اروپا هیچ وقت اینجا نمی آمدید و یاد نمی گرفتید لذا چه بسا مشکلاتی هست که به نفع مسلمانان هست به نفع اهل ایمان هست الله می فرماید لبغا و فی الارد عموماً در زمین چه میکنند کنند تعدی می تجاوز می سرکشی می کنند ولیکن یونزل به قدر مایشه خدا نازل میفرماید از ریسک به اندازه که بخواهد اینه به عباده خبیر و بصیر بدون شک اون ذات نسبت به بندگانش خبیر هست خبر دارد یعنی به بمصالح به مصالح بندگان را اون بهتر خبر دارد از من و تو که ما و شما تشخیص بیدیم بسیر خوب بینا هست حال عباد را میدوند لذا در دربار پروردگار کمبودی نیست ببینید که خدا چقدر وقتی میده چقدر فراوان میده و هو الَّذِي يُنَزِّلُ من بعد ما قَنَتُ الله آن ذاتی است که باران را نازل می فرماید بعد از این که بسا اوقات بندگان نومید می و وینشور رحمته و رحمتش را ناشر می فرماید وسی می فرستد و هو الولی الحمید آن ذاتی هست که ولی هست کارساز هست ولی بمعنی چی؟ کارساز حامید الحمید ستود شده هست اون ذات مصلحت را بهتر میداند او قدرت مطلق دارد چنان قدرتی دارد که آثار قدرتش را نگاه کن همین خلق آسمان ها و زمین و من آیاته خلق السماوات والارض از آيات او آفرینش و پیدایش آسمن و زمین است و ما بث فیهما و آنچه منتشر فرموده در این آسمانها و زمین ای فی مجموعهما من دابت از هر زیرو هر زیرو را هر حیوان را او پیدا کرده و هو علا جمعهم اذا یشاء قدیر و او برجم کردن انها بر از به بردن اینها وقتی که بخواهد قدیر هست یعنی كما بثهم همان گونه که منتشر کرده بعد اینها را جمع بکند هر وقتی خدا بخواد قدیر هست مثلا اون قادر مطلق است هر مصلحتی که او برای بندگانش میبیند خیر در او هست پس شما هم تسلیم محض او بشوید و ما اصابکم من مصیبته فبما کسبت ایدیکم و یاعفوا عن كثير در اینجا تخویف دنیایی هست. یعنی اگر شما مشکلاتی هم گاهی میاد به سبب عمل کرده شما هست. اینجا هم فرق بین مؤمن و کافر است. خدای از زوجال مشکلات و مصیبت هم برای کفار می آورد. هم برای مؤمنین می آورد هر دو به سبب عمل کردشون هست اما به اعتبار معاب به اعتبار نتیجه مشکلی که برای مؤمن می آید این مشکل خیرش هست نفش هست چرا یک سبب کفاره سیئات او میشه سبب رفع درجات او میشه موجب بیداری او میشه موجب توبه او میشه بر میگردد سوی خدا اما برای کافر نه کافر نه حالیش هست نه متوجه هست برای او عذاب میشه پس مشکلات برای همه هست ما اصابه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس یا ما اصاب من مصیبت الا با اذن الله همه اینها میگوید که به ازن الهی هست به سبب عمل کرده مردم هست اولا ما اصابت کم مصیبه قد اصابتم مثلی ها بس اینجا هم خدای عزو جل می و ما اصابکم من مصیبت اونچه که به شما از هر مصیبتی می رسد فبما کسبت ایدیکم به سبب اونچه که دست شما کسب کرده یا عمل کرده شماست و يعفو عن کثیر بسیاری را خدا نادیده میگیرد. بنویسید در هر دو دنیا، در هر دو دنیا خیلی را خدا در هر دو دنیا، در همین دنیا خیلی اشتباهات میکنیم خدا نمی نمیکنه. بسیاری از را در اون دنیا هم خدا نادیده میگیره. و یعفوا عن کثیر. پس اونچه که برای ما اتفاق میوفته به سبب کرد خودمون هست یکی از بزرگان میگوید که من هرگاهی کاری اشتباهی میکنم غفلتی می غفلتی از من صادر میشه من آثار این غفلت و آثار گناه را هم در اسب و سواریم می بینم و هم در همسرم و شریک زندگیم می بینم یعنی اون روز میبینم که نه و مطابق میلم را میره و میبینم که نه همسرم مطابق میلم رفتار میکنه متوجه میشم من خودم اشتباهی کردم منظور اینه که هر وقتی که کارها وفق مراد پیش نمیره مشکلاتی هست علاوه از اون امتحانات الهی انسان اول خودش را مطالعه کند. انسان پرونده خودش را بررسی بکنن ایراد کار کجاست اشکال کار کجاست نه اینکه دنبال دعا نویس بره که دعای بنویس که مشکلی پیدا شده خودت دعا نویس خودت باش خودت استغفار بکن خودت برگرد به سوی پروردگار و از اشتباهاتی که کردی تکرار نکن لذا الله می فرماید وما اصابكم بمصیبتیم فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر خیلی ها خداوند معاف می فرماید یعنی نادیده می گیرد ما انتم بمعجزین فی الارد اما همیشه خداوند معاخزه نمی کند معنی این آیه این است که بر امحال الهی مغرور نباشیم گاهی خداوند که مهلت می ده نمی کند به دلیل این نیست که خداوند را خداوند نمیتونه ما را معاخذ مکنه مهلت میده لزم نیستی شما آجز کننده در زمین و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر نیست برای شما غیر از الله هیچ حامیه و هیچ یاوری نصرت کننده ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام هر چیز قدرتش به دست خداست الان نمونه و شمی از قدرتهای پروردگار و من آیاته از آیات الهی هست کل اعلام کشتی ها در دریا کل اعلام اینقدر بزرگ مثل کو کشتی اینقدر بزرگ که از چند کیلومتر دیده میشه توش میری یک شهری هست اینقدر بار میاره که از تصور انسان خالی هست بعضی کشتی ها رو می شش ماه فقط طول میکشه بارگیری اونها همین اندازه طول میکشه کشه تخلیه اونها داخل کشتی میری زبحان الله چقدر خیابان هست و چقدر کوچه هست و چقدر به طور مثال عرض کنم یک دنیایی هست یک شهری هست چه خانواده کسانی که خدمه و کسانی که ناخداهای این کشتی هستند همونجا جا بازن و بچه با زندگی میکنن یا کشتی هایی میبینی که امروزه صدها هواپیما روی ارشش هست اینها مثل بالاخره در عظمت مثل یک کوه و باز این کشتی با این حجم با این سقل در آب غرق نمیشه این آیه خدا هست این نشانی است قدرت پروردگار است و من آیاته الجوارف البحر کل اعلام کشتی ها در دریا مثل کوه این یه و بیشتر کشتی ها با حرکت باد می رفتند و می روند امروز هم باد تو دریا و طوفان تاثیر دارد درسته که امروز بادبانی نیستند امروز با اون قدرت موتور می روند ولی اگر باد مخالف به وزن نمیتونند ذو اللہ می این اگر اللہ بخواهد باد را ساکن میکند آرام میکند کشتی نمیتونه بره فیظلل نارواکد علی ظهره گردن ایستاده بر پشتش بر پشت آب بر زهر آب ان فی ذالک لا آیات لكل صبار شکور همانا در همین این آثار قدرت آیات هست آیات متعدد نه یک نشانی لکل صبار برای هر انسان صبار بنو صبار هنگام مصیبت. اون کسی را میگن که به وقت مصیبت صبر می کند. و قدردان اون کسی را میگم که به وقت نعمت می کند تشکر می کند. انسان های صبار و شکور این آیات را درک میکن او یوب ق بما کسبو همین هایی که در دریا هستن خدا فرمود که من میتونم همون جا در دریا متوقف بشه کشتی هرسلن حرکت نکند او یو بقن یا همون جا حلاکشون بکنه به ما کسب و به سبب کسبشون عمل کردشون ما انسان ها اینقدر غفلت و گناه داریم اینقدر معصیت و نافرمانی کردیم که اگر خدا تو همون دریا غرقمون بکنه یا در اون فضاب تو هواپی پیما همه نابود بکنند هم بالاخره بین از انسان ها جرم دارن او یوب ق ما به یا یوب خونی یعنی بلهکن نه حالا کهشون بکند به سببه عمل کردشون. اما خدا تعالی چون که قبلا نم عرض کردن دنیا چون داره معاخذ نیست داره عذاب و دار جذا نیست، دار الدنيا نمي يكون لنكر إلا ما شاء الله وياعفو عن كثير خيلي هارا خدا مواف ميكون ميبخشي نادده نمي كير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا إن يعلم حكمة المصائب است يعني خداون دي عز وجل مصيبتها قاهي ميارت وما أصابكم من مصيبتين مصیبت ها تا که بدانند کسانی که اللذین یجادلون فی آیاتنا این فایل یعلمه هست تا بدانند اون کسانی که در آیات ما جدال میکنند در آیات تکوینی یا تشریج رو میکنن میکنند بدونن که وقتی خدا معاخذ بکنند خدا مصیبت بیاورد ما لهم من محیث برای اونها خلاصی و مفر وجود ندارد اما اگر چیزکی داری در دنیا مالیداری، رزقیداری، منال و متاعی داری این نه به سبب غرورت باشه اینها بسیار اندک ارزش اگر واقعا دنباله بی ارزش اگر دنبال ارزش ها هستی بس به آخرت فکر کن برای آخرت برنامه ریز بکن الله می فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا آنچه که شما داده شدید از هر چیزی کالای زندگی دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا آنچه که پیش خداوند است نزد خداوند است اون بهتر است هم کفیتا و هم کمیتا آن بهتر است و ابقا و بیشتر می‌ماند اون چیزی که در دنیا داری 20 سال مالی تو هست 30 سال مالی تو هست فوقش 50 سال مالی تو هست اما اون ابقا اما اون نعمت برای چه کسانی است برای هر کسی نیست برای دارندگان این صفات حال این صفات را می‌خوانیم این صفات زفات مستحقین بهشت و مستحقین آخرت است اولی چیز ایمان و توحید است للذین آمنو برای انهای که ایمان آوردن به خدا و على ربهم یتوکلون على ربهم حسر است تقدیم است فقط و فقط بر ربشان توکل میکنند فقط بر رب توکل میکنند توکلشون به این خدا و اون معبود باطل نیست بلکه توکلشون فقط و فقط به پروردگار هست این اولین صفت است که این صفت صفت اعتقادی و ایمانی هست بقیه صفات برای نجات از عذاب الهی سه چیز همیشه در قرآن بیان میشه شرک نکنید ظلم نکنید احسان کنید اینجا هر صدا بیان شده للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون این صفات اول هست یعنی ایمان نیاورند و شرک نمی‌کنند والذین يجتنبون اثم الاثم والفواحش ظلم است هر گناه ظلم است شد کم ظلم است اما چون شرک تصریح شده بقیه گناهان ظلم کسانی که اجتناب میکنند از گناهان کبیره و بالخصوص خصوص از گناهان که در اونها بیحیائی هست فاحش هستند. یجتنبون کبائر الاسم یعنی ظلم نمی کنند ظلم خودش که از گناهان کبیر است. والفواحش بالخصوص از گناهانی که با شحوت مرتبط هستند و اذا ما غضبو هم یقترون سومی هست احسان میکنند هرگاه عصبانی میشن یغفرون در گذر میکنن یعنی از اون کسی که بر علیه اون عصبانی شده نسبت به او احسان میکنه از او گذشت میکنه و اذا ماغدی هم ما یغفرون این درجه سوء است والذین استجابوا لربهم کسانی که اجابت میکنن دعوت ربشان را و اقام الصلاه نماز را برپا می‌دارند ببینید کلمه اقامه در قرآن می‌آید کلمه ادا نمی‌آید اقامه به معنای یعدونها بجميع حقوقه. هر چه حقوق هستند از از فرایض و واجبات گرفته تا مستحبات و سنن همه را انجام می‌دادند. و امرهم شورا بینهم و امر اونها درباره مسائلی که تو مسائل, مسائل نسی وجود ندارد در اون ام مسائل امرشان شورا بینهم شورا هست بینشان یعنی امورشون بر اساس شورا هست بر اساس هست حضرت حسن بصری میفرماید، تفسیر کبیر نقل کرده ما تشاور قومون الا هدو لارشد امرهم هیچ قومی با هم دیگه مشوره نمی کنند مگر از سوی خداوند هدایت و, و راهنمایی میشان به بهترین و ارشدترین امر. اونی که از همه بهتر و درست تر باشه. و مما رزقناهم ينفقون. اینم احسان. از اون چی که ما رزق دادیم خرج میکنن. ببینید. و مما رزقناهم ينفقون اگر به این آیه فکر بکنید خرج کردن را آسان میکند چرا چون که این جمله جمله هست به قول بعضی ها که قضیه قیاساتها معها یا جمله قیاساتها معها جمله خدا اینجا به ما دستور داده که دلیلش هم همراه خودش است چرا خرج کرد من خدا به دادم و بما رزقناهم ما, ما یعنی بدونی که این مال این پول ذاتن مال تو نيست خداون بهت داده اون خدایی که به تو داده همو به تو دستور میده که خرج کن بس همین مرزقنام هم خرج کردن را چیکار میکند آسان میکند والذین اذا اصابهم الباغي هم ينتصرون خداوند میفرماید اینها کسانی هستند هم اهل بهشت صفات متعددی باید میفعند در این صفات هم صفات عقاید مد نظر هستند هم ایمان هم اخلاق ببخش اعمال اخلاق ایمان اعمال اخلاق لذا کسانی که هرگاه به اونها ظلمی میرسد هم ينتصرون اونها اگر بخوان انتقام میگیرند اگر بخوان انتقام می گیرند. اما فقط انتقام می گیرند فقط انتقام گرفتن عیبی ندارد روی عیب دارد پس وقتی که شما می خواهی انتقام ظلمی که بر شما شده بگیرید این نقطه را در نظر بگیر که و جزا سیعت سیعت مثلها جزای سیئه سیئه هست مثل آن جزای بدی اولا که کسی سؤال می کند اشکال می که اگر به شما ظلم شده این سیئه هست کسی بالاخره شما را زخمی کرده کار بدی کرده ولی شما انتقام بگیرید چرا این سیئه باشین که کار خوبی میکنی حقیت هست چرا این را قرآن فرموده سیئه بعضی گفتند به خاطر اینکه به خاطر جوار هست به خاطر اینکه هم شکل هستند اما جواب اصلی اینه که نه لانه تسوء من تنزل به همون که او شما را زد برای شما چی بود سوء بود بد بود شما هم که میزنی او را هم چی میشه تسو بیه برای او بد تمام میشه از این جهت سیعه است که برای او تمام میشه نه اینکه که شما کاری بدی کردید و قانون انتقام این هست که اگر کسی بد کرد به همون اندازه بهش آسیب برسونید به همون اندازه ضرر برسونید بیشتر از اون نه اما اگر همون اندازه کسی انجام نداد و بخشید این که بهتر فمن عفا و اصلحه هر هرکسی که مواف بکند صلح بکند فاجره علی الله اجرش بر خداوند عزوجل است انه لا يحب الظالمین این سمره ظلم است همان پروردگار ظالمین را دوست ندارد ظالمین چه کسانی که ابتداا ظلم کند چه کسانی که به وقت انتقام ظلم می‌کنند هر دو گروه ظالمه او مثلا یک نفر را کشته این ولی مقتول دو نفر را میکشد او هم ظالمه این هم ظالمه اون برادر این کشته این میره به جنگ که خودش را بکشد میگه نه من پدرت را میکشم من سردارت را میکشم این هم ظلم است پس ظلم مزمومه ظلم پسندیده نیست چه ابتدارا باشد چه انتقاما باشد انهو لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه اما اگر کسی انتقام گرفت همون ملامت نکونید هر کسی که انتقام گرفت بعد, بعد از ظلمش ظلمی مصدر به معنی مفعول یعنی بعد از مظلومیتش بعد از اینکه مظلوم واقع شد انتقام میگیره فاولئک ما علیهم من سبیل این افراد انگرو نیست برانان هیچ نوع الزامی انما السبيل على الذين يظلمون الناس همانا الزام و ملامت هسبر كثاني كي الظلمي كنا ابتداءا بر مردم يا انتقاما ويبغونا في الارض بغير الحق وفساد مي كنا تعدي مي كنا در زمين بنا حق حق فساد نداره بنا حق فساد مي كنا أولئك لهم عذاب أليم انكي قفتين برو الزامي نيست سبيل نيست اما بر انك السبيل هست چه سبيل هست چه الزامی هست این بیان الزام اولئیک لهم عذاب علیم این گروه این افراد برایشان عذاب دردناک است. اما راه انتقام پس باز هست مشروع هست باوجود این که چون بس اوقات انتقام منجر میشه به یک سری فسادهای دیگر قضیه ادامه پیدا میکنه به این دلیل خداوند باز هم توصیه و تاکید به می فرماید والا من صبر و غفر ان انسانی که صبر می کند و می بخشد این ذلک لمن عزم الامور همان این از کارهای باه همت است انکار چه کسی میتونه بکنه کسی که همت والا داشته باشه همت بلند داشته باشه و من یضلل الله خب ما مستحقین بهشت را خاندیم کسانی که دارای این صفات و وجگی هستن ایمان آمنو علی ربهم یتوکلون والذین استنبون کبائر الفا والفواحش از گناه و از فساد اخلاق و غیره دوری میکنند نماز می خانند زکاة می ده مال در رای خدا می, ده می دهند ظلم نمی کنند نابتدائن نانتقامن یعنی هم اخلاقشون خوبه هم اعمالشون خوبه هم ایمانشون و اعتقادشون خوبه در مقابل اینها مشرکین کسانی که خدا آنها را گمراه میکند و من یضلل الله فما له من ولی من بعد هر کسی را که خدا گمراه کند نیست برای او هیچ حامی بعد از خدا خدا را که از دست داده دیگه کسی همیه او نیست. و تر الظالمین لما رأو العذاب تخویف اخرده. همین ظالم وقتی که عذاب را می بیند چه اون برای اون بهشت خاندیم برای این الان بجهنم می و تر الظالمین لما رأو العذاب می ظالمان را وقتی که عذاب را می بینند. یقولون هل الی مرد من می میگویند تحسران حسرت میخورند میگویند میدونن راهی وجود نداره هل الی مرد من سبیل آیا به بازگشت راهی هست راهی وجود داره که برگردیم دنیا بازی اثر از اول شروع بکنیم عمل بکنیم ایمان بیاریم شرک نکنیم تجد بکنیم وقتی می بینید که اونجا باخته همه چیز را از دست داده حسرت می خورد می راهی نیست هل ال مرد من سبیل و خداوند عز و جل احوال بیشترین هارا بیان می فرماید و تراهم یعرضون علیها می بینید ان هارا می شون بر آن عذاب بر آن آتش خاشعین من الذل سرشون پایین هست از ذلت یعنی غجلند شرمنده هستند سرشون پایین یا من طرف خفی اما زیک طرفی واهمه داره بیم داره نگاه میکنن گوشه چشم طرف خفی یعنی نگاه مخفی گوشه چشم نگاه مخفی نگاه میکنه میبینید کسی شاید آیات متعددی را مطالعه بکند تعارض احساس بکند ما از یک طرف می‌خوانیم که در روز قیامت کسی که خدا را فراموش کرده و نحشره یوم القیامت اعمه روز قیامت کور و نابینا حشر میشه اینجا می‌خوانیم که گوشه چشم دزدکی نگاه می‌کند خب وقتی که اعما باشه چطور دزدکی نگاه می‌کند آیا اعمه هست یا می‌بیند اصلش اینه که اون مربوط به ابتدای حشر است خدای تعالی وقتی که می کسی تو وحشت بیفته هم وقتی که او را حاشر می کند بسیار تاریکه و هم چشمش نمی بیند این ابتدان است بعدن خدای تعالی دیدش را بر میگرداند. از ادامه آیات معلوم میشه که یانظرون من طرف خفی سرش را پایین گرفته اما با نگاه مخفی نگاه می کند وقال الذين آمَنُوا اینجا مؤمنین دیگه دهانشون باز میشه لب سخن می به صورت ملامت و شکرانه نعمت کفار ملامت میکنند برای خودشون شکر گزارند چه میگویند؟ و وقال الذين آمَنُوا اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ می کسانی که ایمان آوردند ہمارا انسان‌های زیانکار انهایی هستند که خسرو انفسهم در خساره واقع کردن خودش آن را و اهلهم اهل و عیالشان را در روز قیامت هم خودشان بدبخت شدند هم اهل و عیالشان الا ان الظالمین فی عذاب مقیم آگاه باشید، پروردگار می همان همانا ظالمان یعنی مشرکان و کافران بزرگترین ظلم شرک و کفره همانا ظالمان فی عذاب مقیم در عذاب دائمی هستند. همیشه تو عذاب گرفتار می شوند آیا تو عذاب که واقعی می شوند در مصیبت که واقعی می شوند در دنیا خب خیلی نظامت کشیدند. کلی جلوی معبودان خم شدن، سجده کردند، نظر و نیاز داشتند، گوزفند و شطور کشتن، شب و روز فریاد زدند، به آستانهشان افتاده بودند، اینها هیچ کاری نمیتونن براشون بکنن؟ ما که میدونیم کاری نمیتونن بکنن، ولی شاید یه مشرک فکر کند که من این همه زحمت کشیدم، حتما فلان برای من کاری میکند، خداوند میفرماید و ما کان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله نیست برای این باغیان برای این ظالمان برای این مشرکان. من اولیا هیچ نمادت گارانی کهیان سرونه هم من دونیال. اونها ریاری کند، اونها را نصرت کند به جز الله، از الله. و ما این الله فما من سبيل. هر کسیرا الله جمراه کند برای او هیچ راهی وجود ندارد در آخرت. در دنیا و راه وجود دارد. تو بیار اما در اونجا هیچ راهی وجود نداره راهی برای نجات معذرت خواهی نه نغیریان هیچ چیز انسان را نمیتونه نجات بدهد. پس از وقتی که چنین هست راه حل چیه راه نجات کدوم هست خدا من راه نجات را اکنون معرفی میفرماید راه نجات اینه استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم قبل زن إنسان دعوة پرور ديگار لنبأيك بكويت استجيبوا لربكم معنى شيني قبل زن روزكي ميايات وبازقشت نظارات واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب قبل زنک عذاب خدا معاخذ خدا گرفت خدا بیاید شما پیروی بی کنید لذا اینجا همون می فرمد استجیبو لربکم اجابت کنید دعوات رب تان را من قبل ان یاتی یوم قبل زنک بیاید روزی که لا مرد له من الله نیس برای آن روز بازگشتی از جانب خدا من الله متعلق یاتی هست قبل از اینکه اون روز بیاید که بازگشت اون روز از طرف خدا میاد که بازگشتی ندارد قبل از اون روز دعوت ربتون را لبیک بگوید چونکه ما لکم من ملجع یوم اذ برای شما در اون روز پناهگاهی نیست هیچ جای پناه و مخفی شدند نیست و لکم من نکیر و برای شما نکیری هم وجود ندار نکیری کسی که این وضعیت گرفتاری و بدبختی شما را نپسندد و از شما دفاع کند و اعتراض کند که چرا به این حال گرفتارش کردید کسی نیست کسی که انکار کند کسی که ناپسند کند وضع زار شما را عال زار شما را جنان نکیری برای شما وجود فإن أعرضوا فما أرسلناك عليم حفيظ بينك واقعا سخن سخن بليغي هست كلام كلام بليغي هست خداوند از سختی ها و شداید روز قیامت بیان فرمود و اینکه هیچ راهی بازگشت وجود ندارد وبعد بعد ازون الله عز وجل راهکار اصلی را نشانداد استجيبوا لربكم من قبل قبل ذن روز بیاید وجود این سخن ناسهانه و خیرخواهانه بعض هم ایمان نیاری بعض هم تسلیم نشوی واقعا در داور است به این خاطر رسول الله ناراحت می شد رسول الله جوش می زد چنان جوش می زد که خودش را داشت از بین می برد خداون می فرمه که باخع النفس که اللا یکون اونا ایمان نمیارن تو خودت را از بین بردی باخی و نفسک احال کن نفسک خودت را از بین داری میبین پس رسول الله وقتی که ناراحت میشد خداون آیات تسلی میفرستاد لذا این از اون آیات تسلی است فا این اعرضو این شرط است جزا مقدره ای پیامبر با وجود این راهنمایی و سخن بلیغ اگر آنان اعراض کردن فلا تحزن مانشینه که تو دیگه غم نکن جزا مقدره تو غمگی نباش تو پریشان نباش چرا؟ چون که فما ارسلنا که علیهم حفیظه این علت اون جزا هست ما ترا محافظ اینها نفرستادیم ما ترا به اونان مبلغ فرستادیم اگر اینها گمراه بشن در کفر بمانند در شرک بمانند فرداست تو سوال نمی کنیم شما کارت تبلیغی که کارت خودتون رو انجام میدهی نذر نگران نباش حزین و غمگین نباش چون که فما ارسلناک علیم حفیظه این علت هست ما تو را بر اینها نگهبان و محافظ نفرستادیم پس کار و وظیفه تو چی هست چی هست وظیفه پیغمبر چیه ان علیک الا البلاغ نیست بر شما مگر پیام رسانی پیام خدا را رسوندن و اینا اذا اذقنا الانسان مننا رحمتا فرح بها این علت اعراض است فا این خداوند فرمود اگر اونها اعراض کنند روگردانی بکنند چونکه وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً هَمَنَا مَا وَخْتِكِ إِنسَان رَأَسُّوهِ خُدِمٌ رَحْمَتِي لُطْفِي مِيشِشَانِيمِ نِعْمَتِي مِيذَهِيمِ فَرِحَ بِهَا فَرِحَ بِهَا يَنِي شِي؟ مغرور بيشي كل فرح في القرآن بمعنى البطر فَرِحَ بِهَا يَنِي بِسَبَبِ, النعمات بسبب رحمة غرور و انت تسبهم سيئه اگر به همین انسان سیعی مصیبتی بدی برست اونم سیئه چرا خدا بهش میده به ما قدمت عیدیم به آنچه که خودشون انجام دادم به سبب عمل کرد خودشون شد فاین الانسان کافور انسان در این وقت ناسپاس میشه میگه میگه به من چی نکردم به من هیچ لطفی نشد من بدبخ شدم من چنان و چینی شدم اینها دلیل اعراضشون اینه که اینها نه در وضعیت نعمت به خدا رجوع میکنن در نه در وضعیت نقمت در این زمان هم ناسپاسن در اون زمان هم مغرور و متکبرند و حال الله عزوجل دلائل قدرت خودش را و دلائل توحید را در پایان بیان میفرمایند لله ملک و السماوات والارض فقط و فقط برای خداس پادشاهی آسمان و زمین یک پادشاه اختیار مطلق دارد تشریح پادشاهیش انجاز یخلق ما یشه این تشریح اون ملک تشریح اون پادشاهیه هر چی که بخواد او خلق می کنت. هر چی که بخواد اون به وجود میاید میآورد یهاب لمن یشه و انها به هر کسی بخواهد او دختر میده و یحبو لمن یشاء الزکور به هر کسی او بخواهد پسر میده او یزوجهم ذکران و اناثا یا حر به بانها میده یزوجهم یعنی را ربیشون میده ذکران و اناث پسر و دختر بهشون میده و یجعلو من یشاء و عقیما هر کسی را که بخواهد نازا قرار میده بدون اولاد قرارش میده انهو علیم قدیر این جمله قابل تدبر است پروردگار علیم هست داناست این علت است. اگر کسی را فقط فرزن نمیده علیم است نراحت نشه اگر کسی بی اولاد است نراحت نشه چون خدا میدون نه نمی و نمیده. خدای از زواجل این همه به این همه خلائق اولاد داده به هر یکی ده ده تا داده به تو یکی نداده. ندارد که به تو ندارد؟ نا دارد ولی علیم هست امید آنت پس تو غانه باش قدیر قدرت داره یا اینکه به همه پسر داده به تو دختر داده نمیتونه به تو پسر بده؟ میتونه ولی علیم هست امید آنت خیر تو تو این هست یا به همه دختر هم میده به تو هیچ دختر نمیده هم پسر داری آرزو یک دختر داری به تو نمیده بلاخره علیم هست پس یک انسان مؤمن معتقد باید به تقسیم الهی راضی باشه قانه باشه و بعضی اینجا گفتن اینجا اشاره به سوی پیامبران است یه حبول من یه ش و انافن کدوم پیامبران بودن که فقط دختر داشتن حضرت لط حضرت شعیب ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ كَأُدُوَّ پَيَامْبَر بُودُ يا پَيَامْبَرَان بُودُن فَقط پِسَر دَاشْتَن سَيِّدِنَ إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ يُزَوَّجُهُمْ ذُكَرَانَ وَإِنَاثًا مِثْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هم هم دختر. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا بَازِيًا هِچ نَدارَ مِثْلَ يَحْيَى يعني درباره انبیا است هیس ذهب سبحانه و سبحانه شعيبا ولوطا عليهم السلام اناسا خداوند به پیامبران مثل حضرت شعيب و حضرت فقط دختر داد و عليه السلام ذكورا و اناسا به ابراهيم پسر داد و برای رسول محمد صلى الله عليه وسلم ذكورا واناثا. برسول الله پسر و داد عيسى عقيمين عيسى عقیم قرار داد یعنی بدون اولاد ازدواج هم نکردند روح المعانی بس این تقسیم بنابر حکمت بنابر مصلحت به دست پروردگار بندگانش باید قانع باشند به هر کسی هر داده خوش باشد راضی باشد ويجعل من يشاء وق انه ان تعليلي هست اون ذات عليم هست ميدان قدرت داره هر چي بخاد و ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا متعلق بنبوهته متعلق بتوحيد متعلق بنبوهت ايانبر خدا هستي وحي إلهي. خدا بسي سورة وحي ميفرستد يك وما كان اللي بشرين أن يكلمه الله إلا وحيان براية هيچ بشري نيس انك خدا باو کلام کنن مگر وحيان کلام مي کنن خدا من هم سخن ميشه چطور وحيان وحيان يعني چه يعني القاعن ببین دو صورت دیگر هم وحی هستن به معنای اصطلاحی اما اینجا وحی به معنای لغوی هست یعنی خدا در دلش القا کند در دلش میندازد یا در خواب یا در بیداری فرق نمی کند یکی از صورت های وحی امینه رسول الله صلی الله علیه و سلم این صورت را داشتند آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید که نفس فی روعی یا القیه فی روعی در دل من این مسئله القا شد از طرفی الله انداخت شد یا در دل من این مسئله را الله تعالی فوت کردند در دل من قرار دادند پس إلا وحيان يعني إلقاء خود بخود در دل پیغمبر <الحسن> خدا قرار مده كي انتور بگو انتور بگو انتور بگو انتور وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحا هرچه ميگويت به إلقاءات پروردگار مي ايك سورة وحي سورة دفهم او من وراء حجاب يا از پشت پرد باول سخان این برای همه میسر نشده الا الله مثلا موسی علیه السلام تور می رفت اونجا با پروردگار هم کلام میشد می من ورا حجاب خدا با او سخن می گفت با رسول الله صلی الله علیه السلام هم سخن گفتند در شب معراج در سوره نجم میخانیم که رؤیت نشد دیدار نشد خداوند را مشاهده نکردند اما هم سخن و هم کلام شدند خداوان با ایشون سخن فرمود صحبت فرمود رفتند اون حدیث میراج رفتند و نمازها را از پروردگار دریافت کردند اونجا هم کلام شدند پس این صورت دوم وحی است او یرسل رسولا سورت صورت اینه که فرستاده ای را خدا می فرستده جبرائيل را می فرستد ملک و فرشته را می فرستد این صورت هم برای رسول الله بود پس از صورت های سگانه وحی الهی هر سه صورت را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داشتند فیوحی باذن ما یشا این رسول کی می ایت اذن الله القام کند میگوید به پیغمبر آنچه که خدا بخواد اینهو علی حکیم همان پروردگار علی هست علی معناش اینه که برتر است و, و المانا کون کونهو عالیا ان وجوه الفساد والبطلان البته این در بار قرآن است که در بار قرآن هم علی آمده در اول سوره میاد اما علید وقتی که صفت خدا باشد صفت خدا هم هست صفته کتاب خدا هم هست صفت کتاب خدا به معنای دیگر است صفت خود خدا یعنی برتر وحکیم کارهاش با حکمت و كذلك اوحينا الیک روحا من امرنا این دلیل وحی است سوره وحی بیان شد حال الله تعالی می فرماید این گونه ما وحی کردیم به شما قرآن را روح بماند قرآن قبلا از چرا به قرآن روح گفت میشه چرا به وحی الهی روح گفت میشه چون همان گونه که روح سبب حیات یک جسم مورد میشه قرآن سبب حیات یک انسان میشه انسانی که ایمان ندارد مرده هست ولی وقتی به قرآن ایمان میاره زنده میشه. او من كان ميتا فاحييناه اي اون انساني كه مرده بود ما زنده‌ش كرديم و جعلنا له نورا يمشي به في الناس قرج دادي بر اين نوري نور والنور همي قرانه همو ايمانه كه در دلش است بعد قران ربين خاطر ميفرمايد روح وكذالك اوحينا انما وحي كرديم بسوي شما روحي از امر خودمون ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان تو نمی ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چیه قرآن چیه ایمان چیه پیغمبر قبل از بیست ایمان داشت ولی اینجا ایمان به معنی تفصیل ایمان است ایمان اجباری داشت تفصیلن نمی دانست ولیکن جعلناه نورا ببینی خداوند قرآن را به نور تعبیر می کند وغیر نور است قلب را روشن می کند زندگی را روشن می کند ولیکن جعلناه نورا اما ما این کتاب را این روح را نوری قرار دادیم موجب روشنی زندگی شما قرار دادیم نهدی بهی من نشاؤ من عبادنا ما هدایت می کنیم غرض انزال راه نمایی می کنیم هر کسی را که بخوایم از بندگان خودمون پس تنها راه هدایت کنیم قرآن است بدون قرآن هدایت حاصل شه قرآن است که هدایت ایمان درست اعمال درست اخلاق درست معاشرت درست را راهنمایی میکنه ده. از کتاب های هزار یک شب و کلیله و دمنه و فلان و فلان اینها به دست نمی آید فقط و فقط از قرآن پس نهدی به من نشاؤ من عبادنا و بعد قرآن وقتی که راهنما است سبب راهنمایی که میشه رسول الله میشه و انك لتهدی الى صراط مستقيم این فریضه رسوله تویی که راهنمایی میکنی به صراط مستقيم به وسیله قرآن صراط مستقیم یعنی چه صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض اشاره به دلیل آخری است یعنی راه خدا واقعا صراط است. چون خدا وقتی که اون صراط را اون راه را, را جلوی ما گذاشته خدا که تصرفات آسمانی و زمینی را دارد، خدای که قدرت آسمان و زمین قطعا رای او راه درست میتونه باشه. اون راهی که من از عقل خودم در میارم، اون راه را را کج است اون راه به ترکستان میره. ببین قوانینی که امروز دنیا برای کشورهای خودشون واز میکنند، قانون اساسی که درست میکنند. قانون اساسی درست خواهد بود قانون اساسی ما را به منزل مقصود میرساند که اون بر اساس بر گرفته از وحی الهی باشد، بر گرفته از قرآن باشد. این درس میبرد ما را به منزل مقصود میرساند. در اون قانون هیچ بر هیچ کسی زلم نمیشه. حق مظلوم مشخصه، حق زن مشخصه، حق مرد مشخصه، حق بچه مشخصه، حق یتین مشخصه، حق حاکم، حق رعیت همه اینها با تفصیل گفته شده، بیان شده، فقه الله رحمتشون بکند از تک تک آیات تمام جزیات را استنباط کردن فلان جرم را کسی مرتکف شد باید چکار بشه، فلان ظلم را کسی کرد باید چکار بشه، همه اینها را حدود را، قصاص را، قوانین را، دستورات را، اصول را همه را از قرآن مجید استنباطو برداشت کردن پس راه صحیح راهی هست که خدا راهنمایی کرده چرا؟ ببین یک قانونی اون قانون اساسی هست که نمایندگان مردم میاند و با خود بحث میکنن از روی عقل خودشون خب عقل انسان ها چیه؟ عقل، هر انسانی باید قبول بکنه که عقل انسان ها ناقصه به چه دلیل اگر عقل انسان ها کامل بود همه انسان های دنیا با هم دیگه چی می شدن؟ متفق می شدن آیا انسان های دنیا ما بغیر بذد کشور جهان سوم همون کسانی که خودشون را پیشرفته میدانند و حرف اول را میزنه اونها با هم همقیدند هم, هم فکرند نخیر اختلاف دارن. اون یکی میگه این راه درسته، دیگری میگه این راه درسته. را درست معلوم میشه عقل هر یکی اورا به یک جهتی راهنمایی میکنند. اونایی که بر اساس عقل حکم میکنند. چون انسان خودش علمش قاصره، قدرتش قاصره، توانش قاصره، فهمش قاصره. لذا قانونی که انسان با عقل خودش، با تدبیر خودش واسه میکنه، اون قانون هم ناقصه. اما خدایی که صراط اللہ الَّذِي ما مَا فِي و ما فِي الْأَرْدِ اون خدایی که هم قدرت قدرت و تصرفات آسمان ها و زمین را دارد هم علم ذرات را دارد هم علم آسمان ها و زمین را دارد هم علم به گذشته دارد هم علم به آینده دارد به مکان و بما یکون اون راہی که اون خدا میده. اون را قطعا راه درستی هست بس قانون اساسی که بر اساس قرآن باشه و فرامین قرآن باشه فقط و فقط اون قانون درستی در اون قانون بر هیچ کسی ظلم نمیشه اما بغی قوانین سراپا ظلم و فساده سراپا ظلم و به همین دلیل هست که در این بلاد خودکشی زیاده در این بلاد زلم زیاده، در این بلاد مردم تمام روانی و دیوانه هستند. هفته در سر کشورهای مترقی بدون قرص خواب مردم خواب نمیرند. آرامش نیست، سکون نیست. اینا همه و همه به دلیل همین که هرچی اونها از خود درست میکنن اون را ملاق قرار دادن. لذا الله میفرماید: صراط الله الذي اے پیغمبر تو راہنمائی میکنی بصراط مستقیم صراط الله الذي راه الله ان الله له ما في السماوات وما في الارض فقط و فقط او ہست تمام آن قدرت های کی در آسمان ها و در, در زمین هستند الا ال الله تصیر الامور اختصاص آسمان چئے خبردار فقط و فقط به سوی خدا برمیگردد همه امور در داره این در هر دو دنیا بازگشت امور به سوی پروردگار هست این بود سوره مبارکه شورا که در این سوره مبارکه اشکال دیگری در بار توحید فی الدعا پاسخ داده شده ون این بود که اونها میگفتن در بعضی از آثار و کتب ما می بینیم که در اون کتاب نوشته که غیر الله را میشه فریاد زد خداون فرمودن اون که در کتاب های آسمانی هست مشترکه اگر شما دیدید اون دست ملاهای دین فروش هست اضافه کردن این افراد هست از طرف خدا نیست